همداشت سرمایه مرتضی تبدیل ارزش اضافی به سرمایه یکی از دو جنبه فرآیند توریده توریده سرمایه جنبه دیگر خود تورید ارزش اضافی که در اینجا بهش دیگه به توضیحی قبل از شروع بحث بدم سجل یک کتاب سرمایه یک کلی رو تشکیل میده که هر کدوم اونا عرصه معینی رو کند و فرزهایی که بر هر کدوم از این جلدها حاکمه منظر متفاوت رو ایجاد میکنه تو جل اول ما از منظر تولید به کل سازکار جامعه نگاه میکنیم فرض که توی این جلد به کار برده شده همون فرض های اقتصاددانان سیاسی کلاسیکه یعنی اسمیتو ریکاردو توی منظر قیمت کالا با ارزشش برابره از تجارت صادراتی که به واسطه اون کشوری میتونه اجناس تجملی رو به وسائل تولید یا وسیل معاش تبدیل کنه کلن سرف نظر شده کل جهان بازرگانی یک کشور فقط صورت یک کشور در نظر گرفته شده و فرض شده که تولید سرمایه همه جا استقرار پیدا کرده و بر تمام رشته های مسلطه مارکس یک نظام بسته ای رو در نظر میگیره که در اون سرمایه به شیوه عادی داره گردش میکنه این فرض خیلی مهمه و طبعا آشکارام خیلی کننده است. در واقع ما با یک مدل سراتح زده از پویش‌های انباشت سرمایه روبرو رو هستیم که از نظریه ارزش اضافی مطلق و نسبی تو یک نظام بسته استنتاج پیدا کرده. توی این نظام چیزی به اسم تجارت خارجی وجود نداره. و سود به معقولات اساسی درامر یعنی سود صنعتی بهره تاجر و رانت زمیندار تقسیم نمیشه و دولت حتی قلد خالت رو تو عرضه کسب و کار داره این در واقع تمام آرمان اقتصادی لیبرالاست که در اون هیچ چیزی مانع گردش متعارف سرمایه نشه مارکس این فرض رو میپذیره و نتایج منطقی این فرض رو جلو میره تا جایی که انباشت بیرحمانه سرمایه و ایجاد انحصالات بزرگ سرمایدائی رو از دل رقابت آزاد نشون میره. یعنی فقیر شدن مستمر مردم و از بینرفتن شرایط معاششون و پدید اومدن مولتی ملیارد ملیاردر ها. این هم وضعیت که در سی سال گذشته تو سطح جهانی با رواج نولیبرالیس ما شاهرش هستیم اما جل دوم مسئله گردش سرمایه با تعدیلاتی توی این فرض ها شروع میشه در اونجا سوال بزرگی که متقه اینه که تغاظای مؤثر برای این کالاهایی هایی که تولید میشه از کجاست نگاه مارکس توی اینجا جنبه های دیگه ای از انباشه سرمایه می‌گیره. میگیره اگر قرار جامعه به حرکت روان خودش ادامه بده باید یه جور توازن بین دو بخش عمده اقتصاد یعنی بخش تولید کالای مصرفی و بخش تولید کالای تولیدی ایجاد بشه یعنی شرایطی ایجاد بشه که طبقه کارگر بتونه کالهای مصرفی که تولید میشه رو بخره ماکس با این طرها به این فرضای محدود کننده مسئله رو بررسی میکنه نتیجه این بحث اون چیزیه که ما تو دولت رفاه در دحیه پنجا و شست و عبایل دحیه افتاد رو هستیم دوران رونق بزرگ و طلایی سرمایداری یا همون دولت رفاهی که آشنا هستیم پس برابریم با با یه منظر دیگه ای رو هستیم تو جلد اول زاویه دیت کاملا محدوده تو جلد دوم این زاویه یکم گسترده تر میشه تو جلد سپرم تمام این فرض های تعدیل کنند که کنا بذاشته میشه و در شرایطی که عوامل گوناگون بر هم اثر سازگار سازوکار سرمایداری از بودی تمام گستر یا پانا رومیک بیده میشه دیگه ارزش با قیمت فروش هگی نیسته تجارت خارجی وارد میشه. رقابت بین المللی یکی از عوامل مؤثر توی اقتصاد میشه. تقسیم سود بین ثروات یک عنصر مهم تو تحلیلش مورد میشه. مسئله بروز بحران و به عبارت دیگه گرایش نزولی نرخ سود مطرح شده که زندگی های خودشو داره. پای نظام بانکی، نظام اعتباری، سرمایه روایی، سرمایه تجاری و سرمایه مهمی به میون کشیده میشه. ما با ترداد مارکس با ترسیم چنین گستری از عوامر واقعیت جامعه سرمایه داره رو حالا به صورت مشخص در میکنم من توی بحثی که خودم دارم مطرح میکنم انباش سرمایه رو با فرضایی که مارکس برای جلد اول سرمایه مطرح کرده پیش میبرم تو بخش دوم آقای صداقت به مسئله نظام اعتباری و پدیده شاخصمون یعنی سرمایه مهمی می‌پردازه و درچه چشمانداز انباشت سرمایه رو گسترده ترمی کنه مرحله از حرکت سرمایه تبدیل مبلغی پول به وسایل تولید و نیروی کاره این تبدیل تو قلم رو به گردش رخ میده نه قلم رو به تولید وقتی که وسایر تولید به کالایی تبدیل میشن که ارزشش ارزش اون کالا بالاتر از اجزایی باشه که این کالا رو به وجود آورده یعنی به کالایی تبدیل بشه که شامل سرمایه اولیه پرداخت شده به اضافه ارزش اضافی باشه دومین مرحله حرکت سرمایه شروع میشه این کالاها با ارزشی فوزون نسبت به اولش به قلم روی گردش را رو پیدا میکنن اونجا فروخته میشن ارزش اونا به شکل پول تحقق پیدا میکنه دوباره تبدیل میشه به سرمایه این فرایند باید مرتب تکرار بشه تو هر تکرار ما با مراحل یکسانی رو بروستیم. به روستیم به کل این فرایند میگن گردش سرمایه بنابراین شرط هم باشته سرمایه اینه که سرمایه‌دار موفق بشه کالاهاشو تو بازار بفروشه و بخش بیشتر پولی رو که از فروش دریافت کرده به سرمایه تبدیل کنه. چطور سرمایه از طریق استخراج ارزش اضافی در طول زمان میتونه باز تودید بشه و تداوم پیدا کنه؟ ما اگه انباشت سرمایه رو یک به هم مستمر و در جریان بیوقفی ای از تجدید حیات ببینیم طوری که هر فرایند تولید رو یک فرایند باز تولید هم بدونیم و اگر بپذیریم که شکل تولید اگر شکل تولید سرمایه‌داری باشه پس باز تولیدش هم شکل سرمایه‌داریه یعنی تمام فرص‌های سرمایداری برایش حاکم هستش ارزش اضافی که برای سرمایدار از فروش جنسش به وجود میاد و درآمدش در واقع محصول میشه اگه این ارزش اضافی فقط صرف مصرفش بشه یعنی استفاده کنه برای تامین معاشش خوشیش لذت یعنی به طور کامل به کارش بندازه ما با باز تولید ساده رو هستیم یعنی مقیاس با تولید در سال بعد، سالهای بعد هم باره،, باره، یکسان هستش اما اینجا یک سوال پیش میاد اگه ما از تولید با مقیاس ثابت فقط تکرار فرگند تولید باشه آیا اتفاق تازه رخ داده؟ فراز که هر بار ما یک بار تولید رو تکرار میکنه بارکس میگه یک تغییر معینی داره رخ میده یعنی تکرار ساده یک کار مشخص های جدید رو داره به این فرایند اضافه رو تخمیر میکنه. یا به عبارت دیگه در این شرایط مشخص های قبل که یک فروش ساده بود یه خیل ساده بود از به میره یه مشخصه تکراری جدیدی به وجود می دشن. به این صورت. وقتی که کاریگران مدام تولید میکنن و مدام کالا فروش میره مزدشون به شکل پول دریافت میکنن. این پول رو، میان میرن کالاهایی بیخرن که زندگیشونو به وجود بیان به تامین کنه. این کالاها کالاهایی که خود کارگرها تولید کردن. یعنی کارگرها نه تنها ارزش اضافی رو دارن تولید میکنن، بلکه مزد خودشون هم دارن تولید میکنن. برخلاف اون نظریه رایج که میگه سرمایداران که مزد کارگرها رو میدن، در فراینده هم باشت و در فراینده تکرار. میبینیم خود کارگرا در اثر یک تکرار مداوم نه تنها ارزش افزوده به وجود میرن مزدشون هم به وجود میارن این چه موقع مشخص میشه با یک حرکت مشخص نمیشه وقتی که کل صنف سر... به جای یک سرمایه دار و یک کارگر کل طبقه سرمایه دار و کل طبقه کارگر رو در نظر بگیریم این موضوع کاملا مشخص میشه در واقع مجموعه کارگرا از منظر سرمایه کی هم؟ تصمیه نقاله ای هم برای اینکه که بخشی از سرمایه گردش مداوم داشته باشه کارگر پیوسته تو فرایند معروف CMC یعنی کالا پول کالا به جایی که ما این رابطه را حالا یه رابطه خطی ببینیم که تح نداره ما اینو به صورت یه رابطه مداوم و دووار حالا در نظر بگیرید بخشی از سرمایه به عنوان ارزش منقلب شده کارگرها در کالاها جریان پیدا میکنه. مزد پولی اونها رو دریافت میکنه، پول رو برای کالا خرج میکنه، دو باز تولیدش میکنه، بار دیگه به سر کار برمیگرده تا ارزشه بیشتری رو در شکل کالاها منقلب کنه. در واقع کارگر با گردش سرمایه متغیر یام و مزدش به این شکل زنده میمونه. اینجا یک سوال تر میشه وقتی یه دبران اینطوری به وجود میاد این سوال بزرگ بهتره میشه که خواستگاه سرمایداری کجاست؟ باید شروعی وجود داشته باشه که سرمایدارا لازم نباشه که از طریق کار کارگر، موزد کارگر رو بدن یعنی خودشون باید یه پولی از قبل داشته باشن یا در واقع دارای کافی داشته باشن حالا این من مهم نیست شکلش پولی باشه یا شکلش غیر پولی باشه چطور و چگونه این سرمایه اولیه به وجود اومده؟ اما اولیه سرمایه با ربندهای معینی به وجود اومده مثل سلب مالکیت از روستاییان انحلال داردست های فروپاشی جامعه سنتی با پول شکل جهانی که پول برش حاکمه املاک بزرگ ایجاد باز بشه بنگه بزرگ دامداری باز به وجود بیادش، و همزمان مبادله کالایی در جامعه حاکم بشه سر به مالکیت اجباری مردم در قرن شونزه هم محرک جدیدی پیدا کرد و پس از اون مقاومت نظم اجتماعی سنتی در مقابل این که به اشکال مختلف بود است به جای اینکه این نابرابری هایی که ناشی از قدرت پول بود نقش دست دوم پیدا کنه خود دولت در اون زمان متحد قدرت پولی شد و شروع کرد به اینکه فرایند پرولتاریزه شدن مردم رو به شکل قانونی پیش ببره و این پایه اتحادهای جدید طبقاتی شکل میگیره. اشراف زمیندار جدیدی به وجود میاد. اینا متحد بانک سالاری جدید میشن، سرمایه مالی تازه رشیافته ای می میشن، کارخونه دارای بزرگ تو این ائتلاف می گنجن که همه اینا به تعرفه های حمایتی گمرکی وابسته بودن. به بیان دیگه، یه صورتبندی بندی جدید بورژوازی به وجود میاد که شامل سرمایه‌داری زمیندار، سرمایه‌داری تاجر، سرمایدار مالی، سرمایدار کارخاندار اینا یه اتحاد گستردهی رو به وجود میارن و یه دستگاه دولتی که تابع اراده جمعی اینا بود در نتیجه به قول مارکس قانون میشه بدل و ابزاری که به کمک اون زمینای مردم رو شروع کردن به دزدیدن دزدی نظامند زمینای اشتراکی یا به باید زمین های مشا با یه حرکت بزرگ شروع میشه به نام حسار کشی زمین های آزاد اشتراکی مردم رو دورش حسار میکشن که مانع ورود بهقانه و زارعین به اونجا بشن به این طریق قصب اجباری زمینای مشاه که معمولا ترتیبش به این صورت بود که زمین های زرایی تبدیل به چراگاه میشد برای گستانده مردم بیرون میکردن گستانجاش میذاشتن در اواخر قرن پون این رون شروع میشه تا قرن شون امتداد داشته فرایند دیگه که باز در این جریان بوده که این پول اولیه رو جور کنن چپاول املاک کلیسا بودش مواگزاری املاک دولتی دزدی از عراضی اشتراکی بس به مالکیت فعوداری و تبدیلش به مالکیت خصوصی همه اینا روش های ناغون امباشت اولیه است. به این ترتیب زمین برای کشاورزی سرمایه تصخیر میشه اون رو تو سرمایه گنجوندم بعد میبونین که پرولتاریای آزاد یا به قول مارکس پرندگان پراند، آزاد که نه در رابطه با دیگه زمین دارن و نه هیچ نهادی ازشون حمایت میکنه اونها باید ایجاد بشن تمام افرادی که از زمین رونده شده بودن از چشم دولت تبدیل شدن به دوست سارق، خانه به دوشت و گدا. دستگاه دولتی درست به همون شیوهی نشون داد که تا به امروز ادامه داشته اونا رو مجرم اعلام می‌کردن، به زندان مینداختنشون ازشون اوباشی به تصویر میکشیدن که خشن‌ترین مجازات‌ها مجازات ها رو برای اونا اعمال می‌کردن. به این ترتیب توده های روستایی که ابتدا زمینشون رو کرده بودن از خونه های خودشون بیرون مینداختن، به بلگردی میکشوندن، بعد با قانونای به شدت ارعاب آور به ضرب شلاق و داغ و درفش و شکنجه به یک نظام پذیرش یک انضباط موقتی وادارشون میکردند که برای نظام بگیری ضرورت داشت. این خشونتی که در قرن 15 و 16 و علاوه قرن قرن 17 شاهدش هستیم در ابتدا کاملا شفاف بود قوانین معینی برای سرکوب طبقه کارگر و این طودهای مردم تصویب می شد اما به تدریج قانونمندی برجوازی برای بازداری قدرت‌های جمعی کارگرها خم... به صورت خاموش به کار برده شد در کنار این تعبول یه تعبول دیگه هم داره این که مزرع دار سرمایدار به وجود میاد این فرایند پولی شدن و کالایی شدن شالوده ای انقلابی در زمین هست به نام انقلاب کشاورزی که به سرمایه اجازه میده روابط فقداری رو کنار بزنه و بحری مالکانه که به شکلای مختلف بود تبدیل به اجاره اجاره زمین بشه تاثیر این انقلاب دو جانب بودش علاوه بر این که تعداد زیادی کارگر رو آزاد کرد رسایل معاشر که پیشتر مصرف نشد اونم آزاد کرد. نتیجه تودای مردم برای تأمین معاششون به یک بازار غیر از زمین خودشون وابسته شدن. و این بازار باید اندازش مدام گسترش پیدا میکرد. در این دوره علاوه بر همه اینا بسیاری از حرف پیشوری و خانگی نه تنها در حین در خود بریتانیا مدام از بین میرند. این یک بازار قدرتمند بزرگی رو به وجود آوردش که نقش مهمی در رشد سرمایدایی داشت. ما این موضوع از این موضوع رو به بخش بعدی می رسیم یعنی تکفین سرمایهداری صنعتی که نقش رهبری کننده جامعه سرمایدایی رو از سرمایه تجاری میگیره از سرمایه روایی می گیره و خودش به تنهای قدرت رو هجمی مسلط رو به دست میره این تصاحب کاملا با استعمار تجارت برده و اون چیزی که در آفریقا و آمریکا رخ داد کاملا در هم تنیده است انگلستان به دلایل معینی که هنوزم وجود داره در مکانهای توسعه نیافته روستایی روشت کرد. برخلافی از سر ما در مناطق پیشرفته صنعتی روشت نکرد. پیشرفته هر نوع پیش مزموری رو مدن نظرمون باشه. در مناطقی روشت کرد که خالی از سازمان سنوف شهری قدیمی باشه در بخش ارزم صنعتی شدن بریتانیا در مکان روستایی مثل منچستر, لیز، بیرمنگام که تمام اینا شهرک های کوچکی بودن در این حال نقش نظام مستعمراتی و تجارت بردارم نباید فراموش کنه و بر برون نقش دولت به عنوان نیروی سازمانده و بانی نظام استعمالی در کنار اون اهمیت مسئلهی بدهی ملی و نظام اعتباری به عنوان وسیلهی که از طریق اون قدرت پولی بر قدرت دولت مسلط شده اتقام بین قدرت پولی و قدرت حکومت از صده شمزمان به شکل نظام مالیاتی بروز میکنه. این نظام مالیاتی مدرن به نظام اعتباری مدل بین و قدرت جدید رو به وجود آورده. بانکدارا، معمولای مالیه، راندخارا، کارگزاران، دلالان بورس همه و همه این نظام رو, رو رواج دادن. عربه برای نظام مستمراتی اجازه داد گنجینه‌هایی که از خارج از اروپا تصاحب کردند با غارتگری آشکار، بردسازی، قتل و خوشدار به سرزمین مادری برگرده و در اونجا به سرمایه تبدیل بشه. خب، حالا ما این پس ملابرین منشأ اولیه سرماهیه اولیه ما فهمیدیم. انباشت سرمایه باز تولید ارزش اضافی به سرمایه است این مفهوم اولیه شد برابر این اینه که بخشی از محصول اضافی به سرمایه تبدیل بشه اگه تمام محصول که به دست میاد اضافی باشه تماماً توسط سرمایه دار مصرف شد ما با باز تولید ساده روبرو بودیم اما اگه بخشی از محصول، محصول اضافی از نو وارد چرخه تولید میشه و به سرمایه تبدیل میشه. تغییرات معینی در وسایل کار و در میزان نیروی کار رخ میده که من در ادامه به اون پردازم. این مرحله رو بهش میگن باز تولید گسترده. چرخه باز تولید ساده شکل رو تغییر میده. به شکل یک مارپیچ سعودی در میاد چرا محصول اضافی میتونه به سرمایه تبدیل بشه؟ چون ارزش اون، ارزش این محصول اضافی که همون ارزش اضافیه اجزای تشکیل دهنده کمیت جدیدی از سرمایه است به بارت دیگه انباشت سرمایه درون روند تشکیل ارزش اضافی به وجود میاد. ما انباش رو از لحاظ تحصیلی که بر سرنوشت کارگرها بیزاره بررسی میکنیم. مارکس دو مدل برای انباش تو طرح خودش ارائه میده در مدل اول ما با هیچ تغییر تکنولوژیک تو جامعه روبرو نیستیم تو مدل دوم با تغییر تکنولوژیک روبرو هستیم تو مدل اول در انباش سرمایه با دو حالت معمولا رو که باشه حالت اول حالت اول مدل اول هم باشه اگه سرمایه‌دارا ارزش اضافی رو که دیروز تصاحب کردن تقسیم کنند و اون رو امروز تو تولید بیشتر سرمایه‌گذاری کنن با توجه به اینکه هیچ تغییر تکنولوژیکی نیست یعنی هیچ چیزی در زمین بهره‌وری کار اول تغییر نمی‌کنه. همه چیز به این ثابته در این صورت هر سرمایه‌گذاری بیشتر تعداد کارگر رو یعنی روی کار رو بیشتر می‌کنه. با فرض ثابت موندن ترکیب سرمایه یعنی نسبت بین وسایل تولید و مزد کارگر این نسبت ثابت بمونه همیشه یعنی اگه صد تا واحد سرمایه باشه 80 تاش مربوط به وسایل تولید باشه 20 تاش مزد کارگر باشه به این نسبت 80 به 20 تغییر نکنه رشت سرمایه مستلزم اینه که بخش متقریر یا همون موزد کارگر بره بالا یعنی اون جزئی که به روی کار تبدیل میشه خب اگه استثمار کارگر با افزایش مدت کار نباشه یعنی شیوهی که همیشه در مورد افزایش ارزش اضافی مطلق داریم یا تشديد کار نباشه یعنی ارزش نسبی پس باید هر بار که سرمایه وارد روند جای تولید میشه کارگر بیشتری رو به کار بیاندازه بنابراین به طور کلی انباشت سرمایه مترادف با تزارب شمار فضل کارگر است اما این های اضافی از کجا میان و پیامد این افزایش تغازا برای کارگره ها از کجاست چه تأثیر داره در مقفی افزایش تغازا برای کارگرها باعث میشه که موزدها بره بالا برای این اون مارپیچی که ما از صحبت کردیم در مورد هم باش اینه که ما با تولید بیشتر سرمایه به وجود میاد کارگره بیشتر استخدام میشن و در برخی موارد موزدهای میره بالا یعنی نیروی کار یا بالاتر از ارزش خودش فروخته میشه یا اینکه ارزش نیروی کار کلا میره بالا چرا چون کارگرها استاندارد زندگیشون بهتر میشه در این حالت ابسایش قیمت کار یا مزد کارگرها موجب میشه که کارگرها رفای بیشتری داشته باشن یا به قول مارکس طول و وزن زنجیر طلایی یک یکم شلتر میشه دو تا اینجا جمله وجود داره یا قیمت کار همینطور میره بالا چون سرمایدار در مواجهه با کاهش نیرخ استثمار کتاب کارگر بیشتری رو استخدام میکنه در نتیجه حجم سرمایه‌ای رو که به دست میاره توسط سرمایه‌دار به این شکل میره بالا بنابراین هیچ توی این که تر شده هیچ تنشی نیست بین اینکه این که انباشت بره بالا موزدان بره بالا حالت دوم اینه که انباشت در نتیجه افزایش قیمت کند بشه چون سرمایدان محرکش رو برای سوداوری از دست نرخ نه به پایین. به معنی اینی به مثلا اس... اون علت اولیه این کاهش که عدم تناسب میزان سرمایه و کارگرهایی که استخدام شدن از بین میره سازکار سرمایه خیلی راحت تمام، عواملی که باعث این بوروام میشه از بین بره. دوباره قیمت کار میاد پایین تا مطابق بشه با نیازهای سرمایه. حالت دوم مدل اول انباشت با این فرض باز هست که بهرهوری ثابت باشه. انباشت سرمایه تقاضا برای کار رو بالا میبره اینکه این که این افزایش تقاضا باعث بشه مزد کارگرها بالا پایین بشه به جمعیتی که در دست است بستگی داره هر چه دست دست به اصطلاح جمعیتی که در دست, رسه در دست رسه بیشتر باشه و بیشتر اشتغال پیدا کنه مزد بالا میره و نرخ رو کاهش میده اما با این همه حجم ارزش اضافی میتونه همین طور افزایش پیدا کنه چون کارگرایی بیشتری استخدام میشن اگه تو نقطه معگنی به هر دلیل حجم عرضه اضافی از کاهش پیدا کنه تقاضا باز برای کار کم میشه فشار رو مزدها زیاد میشه و نرخ استثمار میره بالا بنابراین ما با انباش سرمایه نوسانات خونساز کننده‌ای رو تو مزدها و نرخ سود داریم موز افزایش پیدا میکنه انباش کن میشه مزد اونف پیدا, پیدا میکنه سود و انباش تجدید حیات پیدا میکنه یک نظام خودکاری بین تقاضا و عرضه کار و انباش به وجود بیادشه. دومین دو مدل که خیلی مهمه اینه که تکامل بهرهوری کار اجتماعی به قدرتمندترین اهرام انباش تبدیل میشه. یعنی چی؟ تو این حالت تغییرات تکنولوژیک و سازمانی تو طبقه کارگر و در سطح اجتماع باعث میشه بهروری در رابطه با انباش نقش مرکزی پیدا کنه این موضوع منجر به این شد که مارکس تو قانون افسایش به انباش در سرمایه مسئله ترکیب ارزش رو مد نظر قرار بده ترکیب ارزش یک اصطلاح اقتصادی مارکسه منظورش اینه که سرمایه از لحاظ ارزش نه مقدارش ارزش با مقدار فرق میکنه حجمش منظورم نیست بلکه ارزشی که اون داره به وسایر تولید و کار تبدیل میشه یعنی در یک دوره ارزش یک بس، سرمایه سرمایه ثابت میبینید که کمه اما حجمش بیشتر از گذشته هست کالاها ها به ساده کالاهای های امروز نسبت به 100 سال پیش ارزوم بسیار خیلی می که که حجمه میره بالا قیمت کالا مرتب میاد پایین. بهتر چه جووری این امر ممکنه؟ تمام شیوه‌های های افزایش بربری که تو کتاب کاپیتال دقیققا روشن شده، مثل مسئله همکاری، تقسیمات جدید کار، کاربرد ماشینالات استفاده از ام تکنولوژی موجب میشه مقدار کار متناسب با وسایل تولید نسبت به سرمایه ثابت افزایش بده به سرمایه متفاید افزایش بده کنه یعنی هی سرمایه ثابت بالا میره تعداد کارگرایی که همون سرمایه ثابت رو انجام میدن پایین میاد چون بهره بریشون بالا رفته این خودشو تو چینشون میده ارزش کالا کارش پیدا میکنه ولی حجمش میره بالا خب اگه ارزش کالاها کارش پیدا کنه با توجه به نظریه مارکس که کار منشه ارزشه یعنی تعداد کارگر کمتری اون ارزش بادا رفته رو به وجود آورده یعنی حجم سرمایه متقری یعنی تعداد کارگرا کمتر از تعداد مقدار سرمایه ثابت میشه پس وقتی که انباشت به جریان میفته پیشرفت بهرهوری به این میانجامه که سرمایه ثابت مسلط میشه بر سرمایه متقلی ماشینالات و حجم ماشینالات در سطح جامعه نسبت به کارگرها تعداد کارگرها بیشتر میشه وقتی که واش سرمایه به جریان میفته ما با فرایندای جدید روبرو میشیم مسئله تمرکز و تراکم سرمایه خود به خود شکلی به وجود میاد که سرمایه ها برای بالا بردن حجم میزان سرمایه ثابتشون مجبور از ادغام هستند به این طریق یعنی از طریق اطفاء سرمایه و تراکم و تمرکز میتونن مقیاس تولید رو توش صرفجویی کنن ثروت در دست یه عده محدودی قرار میگیره چون تو هر دور انباشت سرمایه‌دار حجم بیشتری رو از سرمایه به شکل قدرت پولی در اختیارش قرار میگیره این تمرکز از طریق دیگه هم روخ میده تصاحب شرکت ها های شرکتی نابودی رقبا گرایش معیلی تو سرمایداری به سمت تمرکز وجود داره که نیروی جد... محرکش نیروی جدیدیه که با تکامل سرمایداری پا به میدون میذاره اون نیروی چیه؟ نظام اعتباری نظام اعتباری تو مراهل اولی خودش به قول مارکس پنهان مثل دستیار حقیر انباش شاخه میدونه با رشته های نامرعی منابع فوری رو از جاهای مختلف در اختیار این سرمایه دار یا اون سرمایدار قرار میده این وسایل ابتدا پراکند است اما چیزی نمیسره که این خودش میشه یک اصلهی تازه و بسیار قولناک تو رقابت تا اونجا که ثروت که در چف فهرم هستش میشه تمام این ثروت رو میبلن تا از نهادهای مالی چه در سطح ملی و چه در سطح بین‌المللی حمایت کنن همه ای را در دوران کنونی ما به کمک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول داره انجام میشه رقابت و اعتبار مهمترین و قدرتمندترین اهرم تمرکز و متناسب با تکامل تولید سرمایه داری تکامل پیدا میکنه بنابراین ابزارهای تمرکز برای پویش انباشت ماکت که داریم تعریف کنیم کاملا تعیین کنند است این قدرت انحصاری رو به وجود میاره بنابراین اگر اقتصاد بازار با شرکت های خورد و کوچیک و به شدت رهابتی شروع بشه تقریبا به طور یقین میشه گفت به سرعت از طریق تمرکز سرمایه چهرش دگرگون میشه و در نهایت به انحصار چند قطبی یا تک قطبی میانجامه نتیجه رقابت همیشه انحصاره پیامدهای دیگه این افزایش بحروری کار برای تقاضای کار داره گفتیم که تقاضا برای کار بر حسب حجم کل سرمایه نیست بر حسب بخش متغیرش یعنی موزده بلا این در مدل اول گفتیم انباشت که میره بالا میتونه موزده کارگرم افزایش پیدا کنه اما در مورد دوم وقتی که انباشت میره بالا یعنی مزد کارگر باید بیاد پایین به این ترتیب با رشد سرمایه میزان کارگران مورد میارد کمتر و کمتر میشه تقاضا با برای کار با یک آهنگ شتاب یافته سقوط میکنه مسلما به صلا با رشد مقدار کل سرمایه اون بخش متغیرش هم افزایش پیدا میکنه اما نسبت این افزایش به نسبت افزایش بخش ثابت یعنی ماشینالات کاملا معکوسه این نتیجه معین اجتماعی داره هیتش اقتصاد نیست هیتش حالا سیاست تران میگیره اینه که انباشت سرمایداری پیوسته به نسبت مستقیم با انرژی که داره یک جمعیت نسبتاً مازاد کارگری به وجود میاره یعنی جمعیتی که بیش از نیاز سرمایه است برابرین این جمعیت از نظر سرمایدار و اقتصاددانان داریم مازاد بر نیازه این کار رو سرمایداری با یک فرایندی انجام میده که ما اسمشون میذاریم کوچکسازی شرکت ها شرکت ها رو کوچیک میکنن یا هیچکار میکنن بیرون میکنن کارگران رو سرمایداری فقه رو با ایجاد مازاد نسبی کارگران از طریق استفاده از تکنولوژی های انجام میده که کارگرا رو از کار از کارخونه از شغلشون بیرون میکنه برای اینکه انباش بتونه گسترش داشته باشه باید همواره یک ذخیره دائمی از کارگرای بیکار به علاوه اجتماعی پیش باشه بنابراین انباش در سر تکنولوژی نیست که اهرم عمدی ان بلکه زخیری کارگران مازاده که به ظهور اون می انجامه به گفته مارکس شیوه تولید سرمایه داری مستقل از اینکه جمعیت تا چه حد افضایش پیدا کنه و چه سیاست در چه و حاکم باشه که افضایش جمعیت رو به وجود بیاره همواره یه از مساله انسانی رو به وجود میاره که برای استثمار سرمایه برای اینکه نیازهای سرمایه در جایی، احتیاج به کارگر زیاد داره یا کم داره، یعنی نیازش مدام متغیره، برای همچین چیزی باید این توده مساله کارگر بیکار حاضر آماده در اختیارش باشه. یک درنی در واقع بتونه با این نیرو رو به تولید بکشونه بعد با فوران‌های متناوب بیرون بندازش یک چرخه شوی دائم تو بازار کار به وجود بیاره. این اضافه جمعیت یکی از فعالترین عوامل بازتولید چه پیامت هایی این فرایند داشته؟ این فرایند در سی سال گذشته منجر شده به مهارت زدایی بخش بزرگی از نیروی کار در سراسر جهان موجب صنعت زدایی از طریق به صدا تغییر تکنولوژیک شده این جمعیت زدایی این افسایش جمعیت نسبی به زیاد کاری تبدیل شده زیاد کاری یا کسایی که شاغلن چون این آدمای شاغل همواره با خطر اخراج روبرو هستند مگر اینکه بیش از حد کار کنند بپذیرند کارش رو با شدت انجام بدن چون داری در زمان ما مایل نیست که حزینه غیر مستقیم کارگرهای موقت رو یا تمام وقت رو برخته بگیره مثل این درمانی مثل حقوق بازنشستگی نمی پذیره برای اولویت برای این که بر شاقلی فشار زیادی وارد بشه تا بتونن بیش از حد کار بکنن چه بخوان چه نخوان موجب شده زخیره بیکار کار بیکار افزایش پیدا کنه حتی توافق بر اضافه کاری گاهی شده به شرط اشتغال از اول باید بپذیرید که اضافه کاری میکنی و جزید اوم... کار عمومیته نتیجه این کار چیه؟ اضافه کاری و است... استثمار مفرد شاغلان این موضوع به یک وسیله برای توانگر شدن سرمایدارای منفرد تبدیل شده تحصیل موضوع هم موضوع کاملا روشنه به عبارت دیگه هر وقت سرمایه دارید با افزایش روبه رو میشه یه تغییر تکنولوژیک وجود میاره امنا یک شبه میتونن بسیاری از کارگرها را مازاد برنیاز کنن خب ما دیدیم که انباشت اولیه چیزی جز فرایند تاریخی جدایی تولید کننده از وسایل تولید نیست این فرایند از این جهت بهش گفته میشه فراینده اولیه چون مربوط به پیشا تاریخ سرمایه هستش و شیوه تولیدی منطبق با اون رو تشکیل داده. اما آیا این به این معنیه که وقتی که سرمایداری هم باشد اولیهش رو تموم کرد وقتی پا پیشا تاریخش تموم شد و وقتی که جامعه سرمایداری پیشرفته و باریدهی به وجود اومد ما دیگه از اون فراینده های خشنی که مارکس براتون گفتم صحبت کرده دیگه خبری نیست بی اهمیت میشه دیگه کارکردی برای سرمایه‌داری نداره مارکس میگه بعد از فرایند‌های قهرمیز اون دهن باشه اجبار خاموش مناسبات اقتصادی دست بالا رو پیدا میکنه پروژه سیاسی مارکس تو سرمایه این بود که به ما هوشدار بده چطور این اجبارای خاموش قانونی بر ما عمل میکنه بدون این که ما متوجه باشیم و در پشت ماسک هایی که همه ما رو بحاصره کرده این اجبارهای خاموش قرار داره میخواد به ما نشون بده هیچ چیز نابرابرتر از برخورده برابر نابرابرها نیست چطور نابرابری از پیش مفروض تو مبادله بازار کاری میکنه که ما باور کنیم افراد با هم برابرند و چطور آموزه های حقوق ناشی از مالکت خصوصی و نرخ سود کاری میکنه که به نظر برسه ما هممون از حقوق انسانی برابری برخورداریم و چطور تبهمات ناشی از برابری و آزادی شخصی از آزادی بازار و تجارت آزاد میاد مسئله تداوم انباشت اولیه در جغرافی های تاریخی سرمایداری یکی از نکاتیه که بسیار باید جدیه اولین بار روزا روزانبورد جنبه از این انباشت سرمایه رو به مناسبات بین سرمایداری و غیر سرمایداری شیوه غیر سرمایداری تولید مربوط کرد که نمود خودش رو تو بین بینون نشون میداد. متودایی که در اون دوره خواهده بود این بود سیاست مستمراتی نظام وام های بین با ترکیبی از جنگ و اصول و غیره توی میدان جنگ، زور، بازی، سرکوب، تاراج و آشکار بدونه که چیزی پنهان بشه هجرام شد روزا نوکزانبورگ ادعا میکرد بین، این دو نظام استثمار انباش در داخل و استثمار انباش در خارج پیوند ارگانیکی وجود داره تاریخ طولانی سرمایداری بر این پویش بین انباشت اولیه و پویش انباشت از طریق نظام تولید گسترده که تو کپیتال گفته شده کاملا تحتیب داره روزا استدلال میکنه که محدود کردن انباشت اولیه به یک نقطه عهد دقیانوس یعنی پیشا تاریخ سرمایه داری اشتباهه و اگه سرمایه مدام درگیر مثلا دورهای تازه از انباشت اولی نشه به خصوص از طریق خشونت امپریالیستی مدت ها بود که از بین رفته بود فراینده ای که مارکس برای انباشت اولیه صحبت میکنه خلیت از جمعیت های و دهکانی تراست مستعمراتی، مستمراتی مستعمراتی، استفاده از قدرت های دولتی برای باز تخصیص دارایی به طبقه سرمایهداری داری زمینای مشاه، خصوصیسازی زمین و دارایی دولتی نظام بینومدلی مالی شکوفایی اوراق قرضه ملی حتی تداوم سایوار بردهداری از طریق قاچاق انسان به خصوص زنان. همه این اشکال هنوز با ما وجود داره این تداوم وقتی خیره کننده میشه که نگاه همونو از مورد کلیس به صلاح کلاسیک بریتانیا به جغرافی های تاریخی سرمایداری در صحنه بنومنالی منطق کنه روزا از جنگ به صلاح جنگ های تریاک علیه چین عنوان یه نمونه یاد میکنه روکزانبورگ میگه وقتی با این نوع اقدامات امپریالیستی بود که انباشت دراز مدت و تحقق سرمایه میتونست انجام بنا به نظر روکزانبورگ تداوم انباشت اولیه امدتا در پیرامون یعنی خارج از مرکز سرمایه یعنی خارج از مناطقی که شیوهی طولت سرمایه داری بود انجام گفته. رویه های استثماری و امپریالیستی هم توی مورد تشکنه که اما ما وقتی که به زمان حال نزدیک میشیم نقش پیرامون تغییر میکنه با توجه به در پنجاه شست سال گذشته ما با دوران استعمار زدائی روبرو هستیم رویه های انباشت اولیه نه تنها در شکلش تغییر و تکثیر پیدا کرده در مناطق مرکزی که سرمایه غالبه برجسته شده بنابراین، نتیگیری که میشه کرد چیزی مشابه با انباشت اولیه زنده است و درون پویش سرمایداری محاصر دردیان داره حیات مداوم اون ممکنه برای بقای سرمایداری امر بنیادی باشه خشونت برای استخراج منابع طبیعی در سراسر افریقا ادامه داره سلب به مالکیت از جمعیت های در آمریکای لاتین تا آسیای جنوبی شرقی، جنوبی و شرقی هیچ کدوم از این ها ناپدید نشدند. برخی موارد تشدید شدند. علاوه بر این، دربار مارکس درباره‌ی فرایندی صحبت میکنه که ما از اون زمان به بعد مثل یک نظام عصبی مرکزی برای تنظیم جریان سرمایه در عمل میکنه. تاکتیک تاکتیک‌های قارتگرانه وال استریت و نهادهای مالی بین‌المللی شاخصهایی از انباشت مالی به شکل دیگه هستند. هیچ کدام از روندهای قارتگرانی که مارکس مشخص کرده از بین نرفته چونان رشدی هم برخی داشته که در زمان مارکس در قابل تصور بود تو زمان ما های توانگر شدن و پولدار شدن طبقه حاکم و کاهش استثمار زندگی کارگرها از طریق چیزی مثل انباشت اولیه رخ داده موج خصوصی سازی که سراسر جهان رو از دهه هفتاد به در بر گرفته داره اوج میگیره خصوصی سازی آموزش آب برق تامین اجتماعی تمام اینا روزگاری به عنوان خدمات عمومی در اختیار مردم بودش خصوصی سازی فعالیت های دولتی کنترل بر توسعه و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری رو از سوی مردم کاهش داده نتیجه کار بیرون کشیدن دارایی ها و حقوق مشترک مردمه به واقع قدرت طبقاتی سرمایه به نحف ای. از طریق فراگندای از این دست مدام استقامت پیدا کرده نول این اینرو ما نمی‌تونیم بگیم انباشت اولی است آر معتقده که اون رو باید انباشت به مدد سلب مالکیت نامه. لیبرالیسم از دهه 1970 به این طرفند دست زده. اماش به مدد سلب مالکیت بیش از پیش در اون مناطق اصلی سرمایهداری داره رشد میکنه ما همه جا شاهد این فرایند هستیم از سلب حقوق دسترسی به زمین تعمیر ماش تا محدود کردن حقوق بازنشستگی آموزش تأمین اجتماعی که همه اینا در گذشته توسط جنبش های طبقه در سطح جهان به بود ما مبارزه علیه این شكلهای متنوع انباش به مدد سلب مالکپ وشاهدیم مبارزه علیه دزدی ژنتیکی و تلاش برای ایجاد انحصار در کدهای ژنتیک آبادسازی محلات فرسوده و تولید بیخانمان در شهرهای بزرگ و شورش مردم علیه اونا روش های قارتگرانه نظام اعتباری که خانواده ها رو در سراسر جهان وادار می‌کنه خونه و زندگی و مستقلاتشون رو به بهای ناچیزی بفروشند. ما نباید مسئله امباش به مدد سرمایه‌گذاری رو نادیده بگیریم. یعنی انباشتی که داره از طریق نابودی حقوق بازشستگی عدم توجه به حقوق مردم نسبت به دارایی مشتلکه که دارم حق به شهر و حقوق تحمیل اجتماعی رو نباید نادیده بگیریم با این که به این موضوع باید توجه کنیم که روز به روز آموزش داره کالایی میشه محیط زیست برای رشد عملیات سرمایداری داره تسخیر میشه همه اینا جزی ای از پویش سرمایداری علاوه برای این ما تبدیل دارایی های مشترک عموم مردم مثلا آموزش به کالا، تبدیل دانشگاه به نهاد دا لذیب داری و تمام اینا پیامت های معین ایدولوژیک و سیاسی تویش سرمایه داریه. در برابر ام اخراج های اجباری و سلب مالکیت اولیه مبارزات بزرگ کرد در قرن 17 و 18 شکل اولیه مبارزه طبقاتی شکلهایی بودند که در قامت مبارزه با خلع مالکیت انجام میشدند. نه جنبشایی که در کارخانه با استثمار مبارزه می‌کردند امروزه در سر سر دنیا ما می‌تونیم از این موضوع صحبت کنیم یک موضوع مهم اینجا به وجود شکل از مبارزه هسته جنبش انقلابی رو علیه سرمایداری در مکان و زمان معینی تشکیل میده. ظهور مکانیسمای انباش به مدد سلب مالکیت سبب شده که نظام اعتباری و تساوی مالی شکل برجسته پیدا کنه که آخرین موجش به بی خانمان شدن میلیون ها نفر در سر سر جهان انجام. مبارزه سیاسی علیه انباش به مدد سر به همون همونقدر مهمه که جنبش های پروترین مسئله نزدیک شدن این دو جنبش هم از لحاظ عملی و هم از لحاظ نظری بسیار مهمه اگر حرف روزا بر برحق باشه که رابطه ارگانیکی بین این دو شکل انباش وجود داره پس باید به دنبال رابطه ارگانیکی بین این دو شکل مقاومت داران بان ا شیرم سلام عرض می کنم خدمت رو از دوستانی که جای مناسب برای نشستن ندارم مصفایی می کنم وقتی که آقای مرتضوی مطرح کردن اصلا بحث نگاه نظری تاریخی داشتن به موضوع همباشت سرمایه وقتی که من مطرح می کنم در ادامه بحثی ایشون نگاه نظری بعدش باد بود، قرارم بحث آقای مرتضبی بحث با نگاه نظری تاریخی رو مزمون و مفهوم انباشت سرمایه بود و تعبوراتی که از هنگام تکوین سرمایه داری تا دوران معاصر در فراز و های انباشت سرمایه شاهد بودیم بخش آقای دکتر مرجون نگاه انزمامی و ایرانی روی چرخه انباشت سرمایه است. بحثی که من ارائه می کنم از یک منظر زیر مجموعه بحث آقای مرتضبی می تونه باشه به خاطر اینکه که انباشت رو با توجه به نظام اعتباری توضیح می دم و از یک منظر زیر مجموعه بحث آقای مالجو باشه چون نگاه هم اینجا به انباشت سرمایه مهمی و نمونه هایی که مثال میارم با توجه به اقتصاد سیاسی ایران هستش بنابراین ابتدا مفهوم انباشت سرمایه ای مهمی رو تشریح می کنم. به طور مختصر در بحث اول جلسه مطرح شد که فرایند انباشت، فرایند حرکت از ام تولید ارزش و نهایتا به امپیرین دسیدن هستشد. سرمایه مهمی هنگامی تشکیل میشه که بدون اینکه ارزشی خلق بشه ما شاهد انباشت سرمایه باشیم یک مثال واقعی میذارم براتون اینجا از کشور خودمون در حدود ده سال پیش شرکتی در ایران در اداره ثبت شرکت ها در یکی از شهرستان های ایران ثبت شد مؤسسان اولیه شرکت همه شهرت مالی داشتن در امل کسب درآمد. بعد از مدتی یک سرس اقدام تبلیغی انجام دادند، بخشی از سهام شرکت رو با قیمت‌های بالاتر به افراد دیگه با گذار کردند. یه سود اولیه بدین شکل بردن. بعد همین هیات مؤسس یه دفاتری در سر, سر کشور به تدریج ابتدا در شهرستانهای بزرگ و سپس در شهرستانهای دورتر برای خرید و فروش سهام اون شرکت ایجاد کرد و شروع به اقدامات تبلیغاتی گسترده کرد هم در صدا و سیما هم در مطبوعات در مورد سودابری شرکت به خاطر همین تعداد متقاضیان خریدش سهام شرکت روز به روز افزایش پیدا کرد و با گذشت زمان قیمت سهام به نقطه های شگفتانگیز و باور نکردنی رسید. ارزش سهام این شرکت تا همین چند وقتیش دوازده میلیارد تومان بود. برای اینکه رقمی تصویری از این دوازده هزار میلیارد تومان داشته باشید که چه ارزشیه؟ ارزش سهام بانک صادرات به عنوان سومین بانک بزرگ کشور ارزش جاریش 4600 میلیارد تومانه یعنی ارزش سهام شرکت مورد نظرم که یک مثال واقعی سه برابر ارزش بانک صادراته با تمام گسترش شعبه‌ای که داره شرکت مورد نظر در حوزه مستقلات ساخت و ساز و صنعت توریست فعالیت داره. بزرگترین شرکت ساخت و ساز کننده در اقتصاد ایران شرکت سرمایه‌گذاری مسکنه. ارزش جاری شرکت سرمایه‌گذاری مسکن 475 میلیارد تومان و ارزش شرکت مورد نظر 12200 میلیارد تومان. یعنی این شرکت 25 برابر شرکت سرمایه گذاری ارزش داره. این ارزش گذاری به چه دلیل اتفاق افتاده؟ چگونه این افزایش، این خلق ارزش از 150 میلیارد تومن سرمایه گذاری اولیه به حدود 12.200 میلیارد تومن این رشد اعجاب انگیز چطور اتفاق افتاده؟ ارزش دارایی های شرکت رو ما مشاهده می رقم در حدود در بالاترین ها اونطور که کارشناسان رسمی ارزیابی کردن حدود 2500 میلیارد تومان اگر به ارزشات ارزش دارایی های شرکت قیمت گذاری بشه این شرکت رقمی در حدود 10000 میلیارد تومان اضافه قیمت گذاری اینجاست اتفاق افتاده بر مبنای سوداوری عادتی شرکت قیمت گذاری بشه که در مورد سهامداران جز بر این اساس باثی اتفاق بیفته قیمت این شرکت خلشت 231 میلیارد تومان میارید یعنی اینکه یه تفاوت هزار میلیارد تومنی اختلاف قیمت عجیب و غریب و غیرعادی اینجا می‌بینیم. یعنی ده هزار میلیارد تومن قیمت انباشت سرمایه اینجا اتفاق افتاده بدون اینکه ای در دارایی های باقی داشته باشه. اصطلاحاً این شکل تشکیل سرمایه و انباشت سرمایه رو در اقتصاد سیاسی مارکسی به سرمایه مهمی و انباشت موهومی اطلاق می سال بعدی اینه که چطور این انباشت سرمایه میتونه اتفاق بیفته؟ این مثالی که زدم این اعداد حیرت انگیز و عجیب و قریب و سرگیجه آور خب ئ که چطور میشه این اتفاق بیفته؟ برای اینکه با این مفهوم آشنا بشید وسی با معغوله های مثل اعتبار سرمایه مهمومی صداگری مالی آشنا بشیم. این معبولوله از بد تاریخ سرمایه داری وجود داشته اما با تشدید فراینده انباشت سرمایه و توسعه مناسبات سرمای هر هرزن بر اهمیت این مغوله ها افزودده شده. پس اینه که رمزگشایی کنیم از انباشته سرمایه موهومی که چطور انباشته سرمایه موهومی رخ میده چطور از اون 150 میلیارد تومان به 12200 میلیارد تومان رسیدیم و این انباشته سرمایه از چه محلی تور از پذیرفته از 150 میلیارد تومان به 12000 میلیارد تومان یعنی 150 برابر اینجا سرمایه اولیه رخ داده بدون اینکه به همون نسبت ارزشی خلق کنه و در حقیقت ارزش بسیار ناچیزی خلق کرده برای اینکه با این شیوه آشنا بشین یه بحثی در اقتصاد هست پانزی اسکیم یا طرح پانزی من اینو مختصرا معرفی میکنم که خود پانزی از نامش گرفته شده از چارلز پانزی ماجر ایتالیاییه که به ایالات متحده سفر کرده بود و, و هر حال صدایی سروت بند شدن در سرش داشت در اون مقطع اتحادیه بین المللی پستی تمرهای اوراق بهاداری منتشر می کرد تحت عنوان کپون بین المللی پاسخ به مراسلات که برای مراسلات بین المللی پستی از اون استفاده می کردن. پانزی متوجه افزایش قیمت این کپون ها در امریکا و اروپا شد. به همین دلیل تصور کرد با سرمایه گذاری خرید این کپون ها و فروشش در بازار ایالات متحده میتونه سودهای هنگفتی به دست بیاره. شروع کرد که دفاتری تحت عنوان گنگاه معاملات اوراق بهادار ابتدا در بوستون و سپس در دیگر شهرهای امریکا تحسیز کرد شرکت مبادلات اوراق بادار و گوایی نامه های منتشر کرد اعلام کرد که برای این گوایی برای سرمایه گذاری 90 روزه سود 100 درصدی پرداخت میکنه و برای سرمایه گذاری 45 روزه سود 50 درصدی پرداخت میکنه. خیلی رقم های جذاب و حیرت انگیزی بود موجی از خرید این اوراق بهاداری که آقای پانزی منتشر کرده بود در ایالات متحده ایجاد شد و همه مردم خریداری که وابوینامه هایی بودند که پانزی منتشر می‌کرد. معمولاً این ثروندهای صداگری طبق معمول همه چی برای مدتی خوبه. به پانزی لقب نابغه مالی دادند. یک گفته ای از ایشون دو در سال 1920 در مصاحبه گفت همه دارو ندارم این گفته پانزی رو شما میتونید با پانزی های وطنی سالهای اخیر مقایسه کنید همه دارو ندارم دو دلار نیمی بود که تعجیبم داشتم اما در قلبم یک میلیون دلار آرزو میتوید شروع کردم به مشاهده نرخ برابری عرض در کشورهای گوناگون اروپایی با مایه گذاشتن از خودم کسب و کارم را آزمودم میخواستم ببینم چه چیزی عذاب در میاید. دیدم درست کار می‌کند. نخستین هزار دلارم، پانزده هزار دلار شد گفتهایی از این دست در تاریخ هم باشده سرمایه مهمی بسیار تکرار شده و دائم شاهد تکرار اون هستی بعد از مدتی ابتدا از محل فروش اوراق بهادار به سرمایه جدید، سود سرمایه گذاران اولیه و سرمایه گذاران قبلی پرداخت میشه و بعد از مدتی مردم به خودشون میاد تحلیل های منتشر میشه که بر چه این قیمت داره به این شکل بالا میره اقلانیتی در بازار حاکم میشه و حجوم به فروش حجوم برای فروش اوراق بهادار ایجاد میشه بنابراین رمز انباشت سرمایه موهومی پرداخت سود و از محل سرمایه های جدید و از محل بدهی بوده یعنی بدون خلق ارزش چگونه می میتوانند سرمایه را افزایش بدن و انباشت سرمایه رخ بده به این دلیل بوده من گفته های پانزی رو گفتم گفته های رئیس هیات مدیره شرکتی که ابتدا اشاره کردم در مجمع این شرکت رو هم عیناً نقل قول می کنم که گفت این شرکت نخستین و تنها و آخرین شرکتی است که همواره سود می کند و قیمت سهامش بالا رود. همیشه وقتی امواج این وقتی که حجوم میارن به خرید این گونه اوراق بهادار اصطلاحاً میگن جنون صداگری در جامعه حاکم میشه وقتی امواج این جنون صداگری فرو می‌نشینه به تدریج حقلانیتی در جامعه حاکم میشه به تدریج جامعه به خودش میاد شروع میکنن به فروش این سهام و اون وقتی که این به شکستن حباب مالی ایجاد شده اتفاق میفته و شکلگیری های آنچنانی و بیخانمان شدن و فبر از سوی دیگر رمز و راز شکگیری و فروپاشی دائمی انباشت سرمایه مهمی در همین واقعیت نه یعنی کسب سود و پرداخت آن از محل سرمایه های جدید جذب جد شده و از محل بدهی های انباشته اما برای اینکه انباشت سرمایه مهمی رو بشناسیم آقای مارس و توضیح دادن منظومه سرمایه مارس به تدریج حرکت از مدارج انتظایی تر و انزمامی تره ما در جلد سرمایه می‌بینیم که نظام اعتباری وارد بحث میشه برای اینکه انباشته سرمایه مهمی بتونه رخ بده باید این نظام اعتباری وجود داشته باشه نظام مالی در جامعه وجود داشته باشه نظام مالی چیه؟ نظام مالی ساختار پیپندهنده دارندگان وجوه مازاد یعنی کسانی که پوتنسیل پسنداز رو دارن و کسانی است که به این وجوه نیاز دارن به این وجوه مازاد نیاز دارن این به عبارت بسیار ساده نظام مالی ساختاری سازوکارهایی که دسترسی دارندگان وجوه و متقاضیان وجوه رو به هم امکان پذیر می کنه تکوین و توصیه نظام مالی و تکوین و توصیه نظام پولی و کالایی در اقتصاد پیوند تنگاتنگ تنگ داره توضیح دادن در مدار انباشت سرمایه نقطه آغاز تشکیل سرمایه اولیت نقطه پایان تحقق ارزش اضافی یعنی که فروش محصول خلق شده ما در نقطه آغاز بخشی از سرمایه میتونه از طریق نظام اعتباری تأمین بشه بنابراین نظام اعتباری شرط لازم حیات دوام سرمایه داریم. و در نقطه پایان بخش از به اصطلاح تأمین تقاضایی که پشتوانه خریدار میتونه به لطف وام ها و انواع و اقسام ابزارهای مالی که سیستم های اعتباری منتشر کنن منتشر محقق بشه. بنابراین نظام مالی جزء لایات تجزای اقتصاد سرمایه‌داری هستش. از نیمه دوم دو قرن نوزدهم نظام مالی اهمیتی بیشتر از قبل در اقتصاد سرماییداری پیدا کرد مسئله مسئله تأمین مالی ترهای بزرگ سرماییگذاری مثل راهن، مثل ستها، مثل سرماییگذاری های و غیره بود و مراجعه به به اصطلاح عموم مراجعه به جذب پسندات های عمومی، گردآوری پسندات های عمومی، گردابری وجوه مازاد عمومی برای تخصیص اون در سرمایه گذاری های گران قیمت و پرهزینه باعث شد نظام مالی پیشرفته تر باشه در تاریخ پیشا سرمایی داری هم نطفه های از نظام جنینی مالی رو می‌بینیم. اما از قرن 19 به بعده که نظام مالی مدرن پا برسه اقتصاد میبذاره و روند شتابان و دائما پیچیده تر به خودش میگیره و پدیده های که است مثل اعتبار، مثل سرمایه مهمی، مثل سوداگری و غیره هیچ کدام این پدیده ها اناثار برونزا در اقتصاد سرمایی نیستم چنان که گفتم اینا ها اجزای لایت اجزای اقتصاد سرمایی هستند ما برای نمونه اینجا تکفین و توسعه نظام مدرن مالی در اقتصاد ایران رو بررسی کنیم برای اینکه دوره زمانیمون رو محدودتر کنیم میدونیم که حالا تقریبا یه دوره ست ساله داریم که نظام اولین اول بانک های خارجی وارد ایران شدن و غیره دوره زمانی رو محدود میکنیم به دوره سی و پنج سال گذشته یعنی سالهای بعد از انقلاب این دوران هم به دو زیر دوره تقسیم میشه یکی دهه نخست که دوره بحران پسا انقلابیه و دوم از 1368 تا امروز که دوره بازسازی موتور انباشت سرمایه است و دوره سیاست های تعدیل اقتصادی در دحیه نخست انقلاب شاهده چی بودیم؟ در دحیه نخست انقلاب قانون بانکداری غیر رویبی تصفیب شد و تا حدود زیادی پول ها از نظام شبکه بانکی رسمی خارج شد و صرف انواع و اقسام صداگری های ماری مثلا ورود به بازار ارز و یا خرید طالاهایی به عنوان انداز شد که ظاهرا جنبه مصرفی دارن ولی اینا رو خریدن نگهداری می کردن چون ارزشش در طول زمان افزایش پیدا می کرد. در کنار شاهد صندوق های قرض حسنه بودیم که از سالهای قبل از انقلاب وجود داشت اما با توجه به حال و حقای سالهای نخست انقلاب شبکه گستردهای ای رو تشکیل دادند. یکی از نخستین طرح ترهای پانزی در اقتصاد ایران در سالهای بعد از انقلاب شرکت های مزاربه ای بود که در دهه 1360 تحسیز شد موجی از تشکیل شرکت های مزاربه ای در اون دهه را شاهد بودیم که در ابتدا مثل همون نمونه آقای پانزی همه چیز خوب پیش می رفت سرمایه گذاران حجوم می آوردن برای بستن قرارداد با این شرکت ها و گرفتن سوت بسیار بالا اما بعد از مدتی اقلانیت به بازار برمیگشت گشت محل تامین این سود مورد تردید قرار می گرفت و همین تردید ها می شد که موجی از فروشندگان یا در حقیقت بازپسگیران وجوهی که در نزد شرکت های مزاربهی گذاشته داشته بودن به این شرکت ها موج... مراجعه کنند شرکت ها برشکرد بشن و مقام های نظارتی بخالت کنند در دوران تعدیل اقتصادی یعنی از سال 1368 تا امروز بخش مالی جدید دائمان داشت توسعه پیدا می کرد این بیشتری به قانون بانکداری غیر رووی دادن برای تعین نرخ سود سپرده ها که میزان جذب سپرده ها در سیستم بانکی رسمی افتایش پیدا کنه و بورس پوچک تهران هم که یک دهه بود فعالیتش کاملا متوقف شده بود ولی دیگر فعالیتش رو آغاز کرد در یه بندی درسنامه این و به صورت بسیار کلی ما دو در بازارهای مالی دو بازار داریم که بازار پول و دیگری بازار سرمایه. بازار پول رو اصاحح میگن بازار وجود پوتاه مدت و بازار سرمایه بازار وجود بلند مدته. مهمترین نماد بازار پول در همه جای جهان نظام بانکی شبکه بانکی و مهمترین نماد بازار سرمایه پولس اوراه به بازاره. من به تفکیک در اقتصاد ایران تحورات بازار پول و بازار سرمایه رو خیلی مختصر تیه 25 سال گذشته شهر میدم برای اینکه تصویری از نظامی که زمین ساز انباشت سرمایه مهمومی هستش به دست بیاریم در ابتدا گفتم این هایی در قانون بانکداری غیردب وی ایجاد شده سپس محسسات مالی اعتباری غیر بانکی از نیمه دهه 70 هفتاد به بعد مجببه تأسیس دریافت کردن و شاید نخستین محسسات مالی اعتباری غیر دولتی در و رسمی چون صندوق های قرزال هزن هم غیر دولتی بودن اما به شکل غیر رسمی فعالیت می‌کردند در بازار بود سال 1379 اولین بانک خصوصی در ایران تأسیس شد و امروز بعد از گذشته بیش از ده سال وضعیت بانک های خصوصی و دولتی وضعیت بازار پول ایران به این شکل نونزده بانک خصوصی داریم میزان سهم بانک های خصوصی از کل سپرده هایی که نزد سیستم بانکی سپورده گذاری شده بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی 70 درصده یعنی 70 درصد سپرده های مردم نزد بانک های خصوصیه و سهم این بانک ها از تسکیلات بانکی سهم بانک های خصوصی حدود 2 درصده یعنی بچه قالب رو در بازار پول ایران به دست آوردن و این روند اگر ما سالهای اخیر مقایسه کنیم دائما همشون رو به افزایش بوده. وقتی به خود بانک های خصوصی نگاه میکنیم چی می بینیمصرفا یه بنگاه مالی ما نمی بینیم اینجا. شرکت داریم یک شرکت بزرگ چندرشدهی یک کانگلومریا داریم می‌بینیم یک شرکت قولپیکر می‌بینیم که مجموعه متنقی از شرکتها را در زیر مجموعهش داره شرکت کارگزاری داره، شرکت تامین سرمایه داره، شرکت بازرگانی داره که در حوزه تجاری فعالیت میکنه شرکت صرافی داره که در بازار عرض فعاله، شرکت ساختمانی داره که ساخت و ساز مسکن انجام میده شرکت پیمانکاری داره و این رشته سر دراز داره و انتهایی براش نمیشه گذاشت دائم مجموعه شرکت های زیر مجموعه بانک ها رو و فضونی بوده و این کانگرومریه های, های بزرگ یعنی شرکت های بزرگ چند رشتهی شکل گرفتن نکته ای مهم به نظر من اینجاست که به تدریج ساختار قدرت در اقتصاد سیاسی امروز ما تا حدود زیادی به همین کانگرومریه ها کانگرومریا های قول پیکر منتقل شده تهیه دو دهه گذشته. وضعیت بازار پول رو توضیح دادم وضعیت بازار سرمایه رو از 1370 در نظر بگیریم تا امروز در نظر بگیریم شاهد رشد مداوم دامنه فعالیت بورس اوراق بهادار بودیم گسترش شمار شرکت های پذیرفته در بورس و شمار سهامداران این شرکت ها از آغاز دهی هشتاد با تشکیل بورس های کالایی و از نیمه دوم این دهی با تشکیل فرابورس، انواع شرکت های تأمین سرمایه که همه نقش بانک های سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دارند، و انواع و اقسام نهادهای های نوپای مالی شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد ایران بودیم اما به طور مختصر تاریخشی بورس رو در دهه گذشته اگر بخوایم خلاصه کنیم صرفاً به سلسله از چک حباب و شکستن حباب های مالی می رسیم و در این فاصله مجموعه ای از دوران های سکون حباب 1374 شکست 1300 شکست حباب در 1375 حباب 1382 و شکستن حباب در سال 1385 و 84 و 85 حباب سال اخیر و شکستن حباب در سال جاری نکته مهم و کلیدی اینه ما ببینید در حقیقت تشکیل سرمایه از طریق بورس رقم بسیار ناچیزی از کل حجم معاملات بورس اوراق بهادار رو تشکیل میده ما به یک رقم چند درصدی می رسیم که تشکیل سرمایه افزایش سرمایه شرکت ها از محل بورس اتفاق افتاده و در مقایسه با حجم کل معاملات رقم ناچیزه عمده آن چه اتفاق افتاده ارزش افزای سهام بدون اینکه ارزشی در بخش واقعی اقتصاد خرب بشه یعنی انباشت سرمایه موهومی بوده حالا نکته مهم و کلیدی اینه قدرت بخش مالی که توضیح دادم هم در بازار پول هم در بازار سرمایه قاعدتا معنیش اینه که سهم بخش مالی از ارزش اضافی و سود بیشتر میشه در اینجا نوعی کشمکش و نوعی دار بین سرمایه اصطلاحاً مولد و سرمایه مالی مهمی ایجاد میشه این کشمکش همواره در تاریخ سرمایی داری وجود داشته گاهی به همگرایی و اتقام سرمایه های مالی سرمایه های مولد انجام میده گاهی هم شاهد تضادهای چشمیل و دعوا های جدی سیاسی سرمایه های مالی سرمایه‌های مالی مهمی و سرمایه های مولد بودیم. در اقتصاد سیاسی خودمون هم کشاکش دو بخش مالی مهمومی و مولد رو شاهد هستیم می‌بینیم با فراز فرود هایی. سوالی که مطرح میشه آیا برورژوای مولد میتواند سوشه تغییر در کشاکش سرمایه مهمی با بخش واقعی اقتصاد باشه. یا خیر؟ پاسخ قطعیق نمیشه داد اما با توجه به توازن فعلی نیروها و ایدئولوژی قالب در برجوازی مثبتن مولد به نظر میرسه این برجوازی ترجیح داده نقش شریک پروده از تر در کشمکش دو جناه سرمایه مالی را ایفا کنه و بعیده که قادر باشه به ایفای نقش به عنوان سوژه تغییر thought نقش به عنوان سوژه تغییر باشه." "در بحث در مورد عوامل قدرتگیری سرمایه موهومی به شکل نظام مالی مدن به عنوان شرط لازم برای همباشت سرمایه موهومی اشاره کردم عوامل دیگری هم در این زمینه محصله. یک مهم نظارتیه. در حال وقتی سرمایه مهمی اشکال خودش موثره." (In به خودش about میگیره بایستی دور از چشم نهاد ناظر باشه تا بتونه کس با کارشو با موفقیت به پیش ببره ما حضرته 3 تا دهه گذشته در سطح جهان و در سطح ایران شاهد مجموعه مقررات گذاری ها و مقررات زدائی هایی بودیم که قدرت سرمایه مهمی رو در اقتصاد افزایش میداد مقررات گذاری های مختلف در ایران اشاره کردم سیاست گذاری در زمینه واگذاری یا قوانین جدید در مورد تحسیس محسسات مالی اعتباری غیر بانکی در مورد تحسیس بانک های غیر دولتی قانون جدید بازار اوراق بهادار در نیمه دوم رحیه 1380 به نظر میرسه در مجموع محیط مقرراتی مناسبی برای گسترش انباشت سرمایه مهمی فراهم کرده با بحث بعدی دیالکتتی که تعامل سرمایه مهمومی و سرمایه واقعی طبیعیه که در هر زمان سرمایه به دنبال بعداکثر رساندن بازده خودشه این قانون دائمی سرمایه است که میخواد سودش رو به برسونه طبیعتاً چه موقع حوزه مالی رو به عنوان حوزه فعالیت انتخاب میکنه موقعی که حوزه مالی سوداوری بالاتری داشته باشه. اون چیزی که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری از دهه 1970 به این سو اتفاق افتاد یعنی پدرتگیری روزفزون سرمایه مالی به این دلیل بود که در این کشورها سودابری بخش واقعی اقتصاد به شدت کاهش پیدا کرده بود و در واقع به دنبال خوزه های جدید سوداوری سرمایه ها به بخش مالی اقتصاد به بخش محومی نقل مکان کردند. اگر در اقتصاد ایران سرمایه ها به بخش محومی نقل مکان می‌کنند، کنن نقل بخش محومی مالی براشون جذاب تره اگرچه در ظاهر به سبب عوامل سوداوریه اما ریشه های عمیق تری داره چون به نظر نمیرسه در اقتصاد ایران پوتانسیل سوداوری بخش واقعی اقتصاد به ته رسیده باشه مانند کشورهای پیشرفته سرمایی داری در اینجا مجموعه ای از عوامل دیگر باعث شده عدم اطمینانی که در فضای عمومی وجود داره مجموعه سیاستگذاری‌ها که حالا در موردش بحث می‌کنم که منجد شده سرمایه‌ها به سمت سرمایه به ها به سمت به, سرم... به سمت سر... بخش موهومی جذب بشه معمولاً اقتصاددانان نو لیبرال وقتی که در توضیح این امر برمی‌آید به نامساعد بودن فضای کسب و کار اشاره می اما نکته مهم اونجاست اگر این نامساعد بودن فضای کسب و کار رو هم بپذیریم که این فضای کسب و کار نامساعده نکته مهم اینجاست عملا مجموعه سیاست پیشنهاد می که باز هم فضای کسب و کار رو بیشتر به نفع سرمایه مالی و سرمایه مهمی تبدیل کنه و بیشتر به نفع این گروه از سرمایه ها باشه وقتی عدم اطمینان در سیاست های اقتصادی وجود داشته باشه در شرایط عدم اطمینان در شرایط مپمبودن چشمنداز ها معمولا سیالترین دارایی هاست لیکویدترین دارایی ها انتخاب میشه برای سرمایه گذاری برای که قابلیت تبدیل به نفت داشته باشه مثلا میرن به جا سرمایه گذاری میکنن در ارز سرمایه گذاری می در تلا پولشون رو به صورت سپرده نگهداری می کنن. یا اورا بهادار می که قابلیت تبدیل به نب داشته بود داره خب اینا در چه شرایطی اتفاق میفته؟ در شریعت که چشمنداز های دراز مدت مبهم باشه. قدرتگیری انباشت سرمایه های مهمی در ایران در مجموع به سبب مجموع عدم اطمینان هایی که سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رو دیر بازده و یا با فجامی نامعلوم کرده اما صرفا به این عامل نمیشه تقلیل داد خب حاصل این وضعیت چیست؟ حاصل حضور پیوسته و دائمی در حوضه سرمایه مهمی چیه؟ شکلگیری حباب مالی و شکستن پی در پی حباب مالی به صورت دائم حباب از بخشی به بخش دیگه منتقل میشه از مستقلات و مسکن به بورس میره از بورس روانه بازار ارز میشه از بازار ارز گاهی روانه سوداگری روی کاله های دوام میشه و این چرخی بیپایان حرکت در حوضه های مختلف سرمایه مهمی همچنان ادامه پیدا میکنه حاصل چی میشه؟ حاصل فضای جنونامیز از سوداگری مالی میشه در فضای جنونامیز انب سرمایه مهمی شاهد قطبی شدن چه بیشتر اجتماع و شکلگیری نمایش های جنونامی از فقر و ثروت هستیم نمونه اخیرش همین صفحه بچه بولدار های تهران در اینستاگرام که بحثش بسیار مطرح شد در جلیه برسیم به این بس که کدام حوزه ها برای انباشت سرمایه مهمی مصاعده سرمایه مهمی ما من توضیح دادم در بخش مالی در بخش مستقلات اما چرا؟ ما گفتیم سرمایه این مهمی عرضش زایی نمی کنه های مارکس در زمینه تمایز بین ارزش و قیمت به مارکس نظرگاه منحصر به فردی داد که از اون منظر قادر باشه تشابه بین مکانیزم قیمت گذاری دارایی های واقعی تولید ناشده مثل زمین رو تشخیص بده که مکانیزمی شبیه دارایی های مالی داره چون این تولید نشده حاصل ارزش نیروی کار نیست بنابراین میتونه در معرض صداگری های مالی قرار بگیره این گونه ارزش های مهمی هستند که به اصطلاق عدم قطعیت دارند و به بیان دقیق تر ارزش بازار دارایی ها به مفهومی بیشتر مهمی است که با ارزش کار تبلی برریافته در آن نامرتبط است. بنابراین حوزه مساعد برای انباشت سرمایه ای مهمی در اقتصاد در دو بخش اصلی مالی و مستقلاته در ایران هم گفتم شاهد شکلگیری دائمی خباب و فروریزی حبابها در همین دو بخش بودیم اما باز هم نکته مهم در اینجا اینه که در حقیقت، زمین مساعد بارور شدن سرمایه موهومی چه زمینی بوده بایستی بدون اینکه به دام تز دولت رانتیر و به خصوص توصیه های سیاستی بسیار نادرست بر مبنای این تز بیفتیم تردید نکنیم که حجم رانت های نفتی که به اقتصاد تزریق شده عامل مهمی بوده که زمین ساز مسائلی برای شکلگیری و انباشت سرمایه مهمی در اقتصاد بوده ما در همین دوره زمانی سی ساله مورد بررسی را اگر نگاه کنیم ما پیوند مستقیم، همبستگی مستقیمی بین دوره افزایش بهای نفت و دوره های سوداگری مالی و انباشت سرمایه مهمی رو میبینیم نیمه اول دهه 1370، نیمه دوم دهه 1380 دو دوره مهم در توسعه انباشت سرمایه مهمی در ایران بودند که همزمان و همبسته بودند با افزایش جهانی قیمت نفت و تزریق راندهای عظیم به اقتصاد جامعه نشانه های انباشت سرمایه این مهمی چیه؟ با توجه به نکاتی که اشاره کردم یکی از نشانه ها به اسطلاح رشد شتابان شاخص ها و رشد شتابان قیمت هاست مثلا میبینیم که شاخص بورس طی یک سال مالی 120 درصد رشد میکنه من هم در سال 73 اگر اشتباه نکنم هم در سال 82 و, و هم در سال 92 یعنی تا آخر سال گذشته شاهد رشد سرقمی رقمی شاخص بورس اوراق بهادار بودیم بخش مالی بخش تبلوری از بخش واقعی اقتصاد باید باشه سال گذشته نرخ رشد اقتصادی ما منفی بود پیش بینی برای امسال پیش بینی در حدود صفر بود که بعداً اعلام کردن که 3-4 درصد رشد داشتیم اما شش ماهه رو اعلام کردن احتمالا با توجه به نوسانات اخیر قیمت نفت این به اصطلاح پیش بینی تعدیل میشه بنابراین با رشد صفر یا منفی در بخش واقعی اقتصاد شاید رشد 120 درصدی در بخش مالی اقتصاد هستیم در این تناقض نشان دهنده انباشت سرمایه موهومیه بنابراین یکی از نشانه که میتونیم انباشت سرمایه مهمی رو تشخیص بدیم رشد غیر عادی شاخص اقتصادی مثل شاخص بورس، مثل نرخ عرض، مثل رشد بیدلیل بهای برخی از کالاها بحث بعدی گسترش نهادهای مالی جدیده بنگاه های مالی جدید انوا و اقزام شرکت های سهامی عام انواع و اقزام های مالی شک میگیره که در این مورد حالا اون مثال که زدم هستش انواعی نحات ها رو میبینیم و ابزار های مالی جدید یه ابزار های مشتقه ها برای اینکه بحث های مربوط و ابزار های مالی مشتقه رو زیاد چندید شما در سال های اقیر برای اینکه تصویری از حجم ابزار مالی مشتقه در اقتصاد جهانی داشته باشین؟ من صرفاً پایین ترین برابرد و تخمینی که از حجم ابزارهای مالی مشتقه در اقتصاد جهانی امروز وجود داره رو خدمتون عرض می کنم که حدود یک هزار میلیارد دلار ابزار مالی مشتقه وجود داره ابزار مالی مشتقه یعنی چی؟ یعنی ابزار مالی که به پشتوانه ابزارهای مالی دیگر منتشر شده به پشتوانه ابزارهای مالی دیگر صادر شده به پشتوانه ابزارهای مالی دیگر 100 هزار میلیارد دلار اکنون در اقتصاد جهانی بر اساس بد به اصطلاح پایین ترین ابزار مالی مشتقه ما داریم تورید ناخالص داخلی کل دنیا هفتاد و هفت هزار میلیارد دلاره. یعنی هف... این قدرتگیری سرمایه مالی در جهان رو نشون میده ما 77 هفت هزار میلیارد دلار تولید ناخالص جهانی داریم و 100 هزار میلیارد دلار ابزار مالی مشتقه فاقد داریم معیار دیگه برای شناخت سرمایه مهمی بالا بودن نسبت بدهی چه در سطح کشوری چه در سطح بومگاه اقتصادیه وقتی از محل بدهی تأمین مالی صورت به پذیره وقتی از محل بدهی تأمین مالی انجام بشه در چنین حالتی ارزشزائی واحد اقتصادی پشتوانه کابی در منابع درونی بنگاه نداره وقتی از محل بدهی رشد اقتصادی در یک کشور اتفاق بیفته از محل بدهی خارجی رشد اون رشد استمرار دراز مدتش زیر سؤال میتونه باشه در مورد وضعیت برای اینکه نشانه دیگری از انباشت سرمایه مهمی رو در اقتصاد ایران براتون تشریح کنم وضعیت بدعی های معوق در اقتصاد ایران رو در بنگاه های اقتصادی در ایران رو با استانداردهای های جهانی مقایسه می کنم نسبت بدهی معوق به کل بدعی ها بر اساس استانداردهای های جهانی به صلاح کنوانسیون یا کومیته بال. کمیته بال وجود داره در سوئیس که استانداردهای جهانی رو برای شاخص ها و نسبت های مالی تعریف میکنه نسبت بدهی های معقف نسبت به کل بدهی یا بر اساس استانداردهای جهانی چهار درصده تو ایران این نسبت بر اساس آمور و ارگام منتشر شده چهار برابر استاندارد جهانیه یعنی چهار برابر استاندارد جهانی ما نسبت بدعی های محبب داریم یعنی 16 درصد حجم کل بدعی های محبب من این رقمشو به دلار نوشتم ولی دلاریه که با نرخ رسمی نرخ 2500 تومن میتونید به رقم تومنیش و ریالیش رو به دست بیارید. 80 ممیز نیم میلیارد دلار حجم کل بدهی‌های های در اقتصاد ایرانه براورد صندوق بین المللی پول از تولید ناخالص داخلی ایران جی ام پی ایران در سال 2014 در سال میلادی اخیر حدود 402 میلیارد دلار. معادل یک انجام تولید ناخالص داخلی نه بدهی بدهی ما اینجا شاهدش هستید در اقتصاد ایران وجود داره همه اینها نشانه است از انباشت پیوسته سرمایه موهومی در اقتصاد ایران اگرچه رکوده سالهای اخیر رکوده دو سه ساله اخیر هم موثر بوده قطعاً در قصور بانگاه ها در پرداخت بدیاشون اما از طرف دیگه نوع سیاست تسهیلاتی که دنبال شد در نیمه دوم دحیه 1380 سیاست بسیار مهمی بود سیاست بسیار معثری بود برای توسعه همباشت سرمایه مهمی در اقتصاد ما یه نشانه دیگه انباشته سرمایه مهمی چیه در اقتصاد این که صداگری مالی و شکگیری دائمی خباب ها در بازارها و شکستن حباب ها در بازارها ما این رو در اقتصاد ایران مثالاش رو در مورد بورس توضیح دادم و همین روزها خبراش رو دارین میبینید میشنوید شکستن حباب بورس رو و در اقتصاد جهانی ما طی از 1980 تا امروز یعنی از اواخر دهه 70 تا امروز که سیاست های مالی گرایانه دنبال شده در اقتصاد جهانی به صورت دائم شاهد شکگیری گیری مالی و شکستن این حباب ها در اقتصاد بودیم آخرین حبابش حباب بخش مالی مستقلات بود که در سال 2007- 2008 فروریخ قبل از اون خباب شرکت های داتکام بود خباب شرکت های دارای فناوری پیشرفته بود مانند یاهو و گوگر و غیره که به صلاح در آستانه هزاره جدید پرولیخت این حباب اون موقع هم شاهده پرولیزی در بازارهای مالی بودیم که و اون چیزی که اتفاق افتاد در واقع برای اینکه قدرت جذب محار خباب پروریخت وجود داشته باشه اومدن سیاست های رو در اقتصاد امریکا تغییر دادن بام های بس... با بهراهای بسیار ناچین به صلاف بام های به گروه های کم درآمد دادن خباب رو از بخش فناوری اطلاعات از بخش آیتی به بخش مستقلات منتقل کردن اما واقعیت های اقتصاد واقعی بعد از مدتی چهره خودش رو نمایان می‌کنه و باعث میشه. حباب‌های حباب اقتصاد مالی فرو بریزه همونطور که در 2007-2008 ریخت و همونطور که در اقتصاد ایران در شکگیری حباب ها و پرو ریختن حباب ها در بازارهای مالی شاهد هستیم عوامل دیگه ای مثل کلافرداری ها پساد های مالی و اطلاعات نامتقارن در بازار های مالی همه عواملی هستند که به شکگیری انباشت سرمایه مهمی و استمرار انباشت سرمایه مومی کمک میکنه فقط بحث اطلاعات نامتقارن رو خیلی مختصر توضیح میدم اطلاعاتی که درش اقتصاددان ها بسیار شهر تشریح کرده اقتصاد نولیبرالی مبتنی بر این پیشفرد هست که اطلاعات به صورت کامل در دسترس تمامی فعالان بازار به خصوص در بازارهای مالی است. اما در بازارهای مالی آنچه در عمل وجود داشته این است که توضیح اطلاعات نامتقارن بوده است. برخی به اطلاعات بیشتر دسترسی داشتن برخی به اطلاعات زودتر دسترسی داشتن و دسترسی زودتر به اطلاعات یعنی کس به سودهای هنگفت و انباشت سرمایه مهمی من بحثم رو میبندم اینجا تلاش کردم مفهوم انباشت سرمایه مهمی رو تشریح کنم توضیح بدم که چگونه انباشت سرمایه مهمی با ایجاد اختلال ها و گسست در فرایند آمتر انباشت سرمایه و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دافلی یک آرزه اختلال زای ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد میکنه این موضوع بخشی از بحث کلیتری که آقای مولجو در قالب زنجیره همباشت سرمایه در ایران در ادامه صحبت‌های من ارائه میده. خیلی متشکرم. در دوایق اماتی پاسخی بسیار اجماعی بهش بدن نبارت از این است که آیا نظام اقتصادی در ایران نوعی ای اقتصاد سرمایه داران است یا خیر؟ چارچوب مفهومی که مورد استفاده قرار میدم و برای این بحث عرضه می کنم که ما اینکه در حدود یکی دو سال گذشته برای چند پرسش دی نیز ارائه کردم چارچوبیست که مبتنی بر تجربه سالهای پس از جنگ هشت ساله ترمیه شده در این حال معتقدم با جره و تعدیل هایی که اینجا در دستور کار من قرار نمی این قابلیت رو داره که برای تاریخ معاصر ایران نیز با جره و تعدیل به کار گرفته بشه این چارچوب مشخصاً در حقیقت ردیابی حلقه های گوناگون و به زعم من هفتگانه زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران است هر یک از حلقه های ای که در طی صحبت به اونها اشاره خواهم کرد در واقع یکی از شرط های لازم اما نه ضرورتم کافی برای تکوین و استمرار پایدار انباشت سرمایه در هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران هست از حلقه اول و به معنای شرط لازم اول برای هر اقتصاد سرمایه دارانی مشخصا اقتصاد ایران شروع بکنم اگر بنابر تکوین نوعی نظام سرمایه‌داری در هر جغرافیا و هر زمانی باشه پیش از هر چیز ضرورتاً باید تمرکزیابی ثروت در دستان اقلیتی از اعضای جامعه به زیان اکثریت نابرخردار از این ثروت و منابع اقتصادی تحقق بیفته. مش آقای مرتضوی به تفصیل متناسب با وقتشون البته در این باره صحبت کردند که انباشته اولیه‌ی سرمایه که به شیوه غیر سرمایه دارانه منابع اقتصادی رو در دستان اقلیتی متمرکز می‌کنه کنه پیشا تاریخ سرمایه داریست در این حال همین فرایندها همین ساز و کارها که سرجمع برسازنده انباشته اولیه بودن متناسب با زمان و مکان جدیدشون در تاریخ سرمایه هم در تواریخ سرمایه داری هم ضرورتم متحقق میشن اونچه که اشاره کردن به درستی بیش از همه به معنای جدیدش مدیون دیوید هاروی هستیم انباشت به مدد سلب مالکیت از تودهانان در ایران معاصر به طور کلی و مشخصا در دوره زمانی مورد بحث من سالهای پس از جنگ هشت ساله نیست نوعه گسترده ای از انباشت به مدد سلب مالکیت از توده ها به وقوع پیوسته اینجا نزاع عبارت است از نزاع بین عقلیتی که در بطن و متن قالباً طبقه سیاسی حاکم جایی دارن از سوی و اکثریت نابرخورداری که به درجات گوناگون با هسته اصلی قدرت قدرت سیاسی فاصله دارن اونقدر که به سالهای پس از جنگ هشت ساله برمیگرد و اونقدر که به ترکیبی از عمل کرده قوای مقننه و مجریه راجع میشه میتونم از باب نمونه به سازوکارهای از این قبیل اشاره بکنم که مهمترین سازوکارهایی بودند که باعث تمرکز سروت در دستان عقلیتی از اعضای جامعه نه از ره گذره تولید سرمایه دارانه غیر سرمایه دارانه بودند خصوصی سازی های گسترده دارایی های دولتی که از سال هفتاد به این سو شروع شد و در دهه 80 اوجش اتفاق افتاد صرف نظر از اینکه به چه کس یا کسانی رسیده باشه تولید و توزیع پول و اعتبار در شبکه بانکی وارد هیچ یک از این سازوکارها و توزیعش نمیشد صرفاً سیاهشون رو عرض میکنم. فساد اقتصادی در بدنه دولت کم و کیف مالیات ستانی و اخذ عوارز و برقراری تعرفه ها مکانیسم از این دست که دو موردش هم از ذهنم اجالتا در واقع رفت همه و همه در سالهای پس از جنگ هشت ساله و خصوصا در صدر اونها بیاد آوردم عقب میشینی دولت در اراعی خدمات اجتماعی چون بهداشت، سلامت درمان آموزش عمومی آموزش عالی از جهاتی مسکن و امثاله که به درجات گنابون بنابرای قانون اساسی مسبب در کشور اراعی اونها سرف نظر ازه گیرندگانی که آیا دارند توانایی خرید یا خیر بردوش دولت اما دولت در تمام سالهای پس از جنگ هشت ساله از این حوزه ها عقب نشینی اقتصادی کرده است و اونها رو به بازار سپرده و از این ره گذر مشمول فرایند کالایی سازی قرارشون داده این حلقه این شرط انباشت سرمایه و تکلین انباشت سرمایه در اقتصاد ایران خصوصا در سالهای پس از جنگ به حد علاشه بیرده عقلیت برخورداری هستند که صاحب به درجات گوناگون صاحب منابع اقتصادی هستند روی دیگر سکه اکثریتی هستند که به درجات گوناگون نابرخوردار از این منابع اقتصادی هستند که به شیوه غیر دارانه در دستان اقلیت متمرکز شده است در حلقه دوم به منزله شرط دوم شکل و تکوین زنجیره انباشت سرمایه اگر بنابر ورود این اقلیت برخوردار از منابع اقتصادی به عرصه فعالیت‌های اقتصادی باشه، پیش از هر چیز نیاز به نیروی کار برای استفاده داره که اولا قرارmat باشه، ثانیاً حتّی مقدور، ارزان باشه، سالسان، موثق باشه. بحث کارآمدی نیروی کار رو اینجا وارد بحثم نمی‌کنم. دهس حد مقدور ارزان بودن نیروی کار رو به حلقه ششم مورد بحثم احاله میدم و مشخصا متمرکز میشم اجمالا بر چبونگی شدن صاحبان نیروی کار در سالهای مشخصا پس از جنگ هشت ساله این متی شدن از ره گذر مجموعی سیاست ها و نگرش ها به وضوع پیوسته که سرجم از یک سو توان چانزنی فردی صاحبان نیروی کار رو به شدت کاهش داده و از سوی دیگر توان چانزنی جمعی صاحبان نیروی کار نوقتی سازی قرارداد های نیروی کار از از باب نمونه 6 درصد سال 68 به بنابر از آن مسئولان وزارت کار این روزها بالای 90 درصد قراردادها از ره گذره ربودن امنیت شغلی از های گستردهی از صاحبان نیروی کار ظهور های پیمانکاری تامین نیروی انسانی با قطع رابطه حقوقی مستقیم بین صاحبان نیروی کار از سوی کارفرمایان دولتی و شفه دولتی و خصوصی نه فقط در, در حقیقت بخش های مشخصی از این یا اون بخش بلکه پراکنده در بخش گوناگون خروج کارگاه های زیر ده نفر ابتدا به ساکن زیر پنج نفر در سال 78 از سال 81 به این سو زیر ده نفر از شمول برخی از مواد قانون کار با در حقیقت در داشتن چتر حمایتی نهاد غیر بازاری قانون کار از روی سر بخش های از صاحبان این کار نه فقط در کارگاه های زیر ده نفر بلکه در بسیاری از موارد در همچنین کارگاه های بمراتب بزرگتری که با انواع ترفند های حقوقی با موفقیت توانستند خودشون رو کارگاه های زیر ده نفر جلده ددن و نهایتا تعدیل چشمگیر نیروی انسانی دولتی از اوایل دهی هفتاد خورشیدی به این سو در اشلهای پایین شغلی و پرتاب این نیروی انسانی به بازار کار آزاد با برداشتن و گرفتن در حقیقت چتر حمایتی اشتغال دولتی از این نیروها سرجم باعث کاهش توان چانزنی فردی صاحبان نیروی کار هم در محل کار و هم در بازار کار شده از سوی, از سوی دیگر خصوصا فصل ششم قانون کار از این ره گذر که صرفا سه نوع از های جمعی رو برای کارگران به رسمیت میشناسه اشارم به شوراهای اسلامی کار نمایندگان منفرد کارگری و انجمن های سنفی کارگری هست که بنا بر اساسنامه ها و شرایط تشکیل و پس الهاا هم به کارفرمایان دولتی و شپ دولتی و خصوصی و نیز به دولت باابستگی تمام ایار دارند باعث شده است که، ممانعت گسترده ای از تکیبین توان چانزنی جمعی در جمع صاحبان نیروی کار به وجود به کاهش توان چانزنی فردی و جمعی صاحبان نیروی کار همانا و به همین اندازه مطیع شدن اونها در برابر خواسته های کارفرمایان دولتی، شپ دولتی و خصوصی در زمینه همه مؤلفه‌هایی هایی که سرجم تنین کننده شرایط زیستی و کاری صاحبان میوری کار هست هم این یعنی کالایی سازی میوری کاری چیزی است که وقتی به فروش می همزمان به, با... به فروش رفتن ارادی خودش رو تفویز می‌کنه به خریدار. آنگونه که نیروی کار کالا شده قابلیت فروش داره بازار کار داریم و از این ره گذر صاحبان نیروی کار خوبی اراده خودشون رو در خصوص تعیین مؤلفه‌های چون دستمزدها حداقل دستمزدها شرایط اسکان شدت کار فراغت ذرباهمگی کاری دینانی محل کار نوع قراردادهای کار و سایر های تعیین کننده شرایط زیستی و کاری خودشون رو در واقع تفویض کردن به کارفرما. نیروی کار به حد علا در سالیان پس از جنگ کالا شده و صاحبان نیروی کار نیز به همین اندازه مطیع خواسته های کارفرمایان این شرط نیست این حلقه از زنجیره هم باشده سرمایه نیز در اقتصاد ایران به حد علا شکل اینجا نزا بین کارفرمادان صرف نظر از اینکه که دولتی باشن، چهت دولتی باشن یا خصوصی از روی و صاحبان این دروی کار در طبقه متوسط خصوصاً طبقه متوسط پایین در طبقه کارگر و سایر اقشار بالاتر در پایین تر است هست اما اقلیت اعضای جامعی که در حلقه اول مورد بحث من برخوردار از من اقتصادی شدن در حلقه دوم به نیروی کار متی دست دیافتن برای ورود به فعالیت اقتصادی همچنین نازمند، حد دل ارزان تر بودن و حد دل دسترس دست پذیر تر بودن ظرفیت‌های های محیط هم هستن ظرفیت هایی مثل آب‌های صدقی، آبهای زیرزمینی، زخایر آب شیرین، خاک، عراضی، فضای عمودی شهرها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، رودخانه ها، ها و همه اون چیزی که سرجم طبیعت البته طبیعت ساندیه رو نسازه. حلقه سوم عبارت است این که متناسب با امکانات روز، ظرفیت های محیط زیست برای فعالیت اقتصادی هرچه ارزان‌تر و متناسب با امکانات تکنولوژیک هرچه دسترس پذیرتر برای فعالیت‌های های اقتصادی دولتی ها شفه دولتی ها و خصوصی ها بشه این اتفاق که من سریع از اون گذر می کنم امیدتا از ره گذر کالایی سازی ظرفیت های محیط زیست سازی طبیعت به برو بیوسته که رکن رکینش عبارت است از مالکیت خصوصی بر ظرفیت های محیط و اشاعه این حلقه این حلقه هم به حد اقتصاد ایران البته متناسب با سطح تکنولوژی که بهش دسترسی داشت شکل دلید. در این سه حلقهی ای که از حلقه های هفتگانه زنجیره هم باشته سرمایه اشاره کردم به حده الان در اقتصاد ایران خصوصا در سالهای پس از جنگ ایش سال شکل گرفته ملاحظه می در واقع فرادستی و قلبه طبقات فرادست تر اجتماعی و طبقات فرودست تر اجتماعی اونقدر که به این منازعه طبقاتی برمی سرمایه داری در ایران روایت پیروزی داشته است. از اینجا به بعد اما در واقع ام وارد روایت شکست سرمایهداری در اقتصاد ایران گشستگی ها و سستی های سایر حلقه های چهگانانه زنجیره انباشت سرمایه می در حلقه چهاررمم، ما مشاهده این هستیم اقلیت برخورداری که به نیروی کار متی و های در دسترس و حتی مقدور ارزان زیست دسترسی داشته است حالا وقت تعیین کننده است برای اینکه مشخص کند این منابع اقتصادی که وارد فعالیت اقتصادی قرار است بشوند به چه کانالی هدایت بشوند به کانال تولید کالاها و خدمات آنچه که میتوان سرمایه مولد نامی که تولید کننده ارزش افسوده است یا وارد فعالیت های اقتصالی که گرچه ممکن است برای کارگزاران خودش سوداور باشد اما متزمن ایجاد ارزش افسوده نیست یعنی سرمایه نامولد یعنی فعالیت های سوداگرانه که بخش مهمی از اون چه در جهان، چه در ایران، همانگونه که آقای صداقت به درستی و به تفصیل درباره استفاده کردند، سرمایه موقوم است. اما فقط سرمایه موقوم به این معنای مشخص نیست. مسابقه در اقتصاد ایران بازار، بورس اوراق بهادار هست، بورس کالاهای هست، فرابورس هست، شبکه بانکی از بازار مستقلات بازار کالاهای سرمایه ای است. بازار اسعار و قساله ها زاز. با این توضیح، با این تاکید ویژه که اگر این مجموع از فعالیت های اقتصادی رو اینجا سرمایه نامولد می نباید همزمان مهم این معنا باشیم که روی کارکرد مناسب بخش حقیقی اقتصاد سرمایه مولد در اقتصاد سرمایه در گروه حضور، وجود و استمرار این بخش ها نیست مگه بخش حقیقی اقتصاد، مگه سرمایه مولد میتونه میتواند بدون شبکه بانکی، بدون بورس و امثال هم به حیات خودش ادامه بده اگر این نوع فعالیت های اقتصادی رو نامولد می‌نامیم، امدتاً به اعتبار فتدان آن و توازنی بین سرمایه مولد و سرمایه ناموانید است که توازنی پایدار نمی شوانده باشن چرا؟ چون بخش امدهی از منابع اقتصادی ارزش افزوده ایجاد نمی کنن بخش کوچک سرمایه مولد نمی تونه کل بار این مجموعه رو جلو ببره اینجا به معنی که توضیح دادم منازعه در واقع بین سرمایه مولد و سرمایه نامولد است نوعی منازعه درون تبباتی درون برشوازی در اقتصاد ایران از دیرباز از شام در واقع سپید دمان شکلی نظام سرمایه داری در این زمینه البته با فراز و نشیم تاریخی خودش که اینجا من تاریخ رو وارد بحثم در هیچ مرحلهی نمی کنم همواره قلبه سرمایه نامولد بر سرمایه مولد رو داشتیم هنگامی که سرمایه نامولد نه زرفاً در کوتاه مدت در دراز مدت بر سرمایه مولد قلبه داشته باشه گسستهگی یا چه بسا سستی در این حلقه زنجیره انباشت سرمایه به وضوح پیداست در اقتصاد ایران این حلقه از زنجیره انباشت سرمایه به شدت گسسته است به شدت سست به واسطه نوع توازن سیاسی که همباره شاید بوده این نوع خاصی از توازن سیاسی که درون برجوازی در یک دوره تاریخی، این یا اون دوره وجود داشته است که بارد بحثش نمیشم اما علا به این توضیحات اینگونه نیست که ما سرمایه مولد نداشته باشیم درست بخش قابل توجهی از سرمایه مولدمون در واقع استثمار طبیعت، نفت، مواد معدنی است و امثال هم، اما حال، در خدمات، در صنایه، در کشاورزی ما شاهد بالیدن سرمایه‌های مبلّد هم بوده ایم این سرمایه‌های مبلّد اگر فاقد تقاضای مؤثر کافی برای محصولات و تولیدات خودشون باشند به پنجم پنجام اگر فاقد این حد از تقاضا باشند اونقدر که به حلقه پنجم برمی از نوع گسستگی و سوستی از نوع دیگر در زنجیره هم باشت سرمایه به وقوع می پیانده تقاضای مؤثر کافی برای محصولات داخلی سرمایه مولد یا طبق تعریف از ره سادرات و دسترسی به بازارهای بینان باید به بغوب پیونده یا از بازارهای ملی در ایران از دیرباز البته از این مقتب اون مقطع، قصهش میتونه متفاوت باشه اما روندش این است که ارز میکنه همواره ما در سادرات محصولات غیر نفتی سخت ناتوان بوده این محصولی و از سوی دیگر بازارهای ملیمون که منصقاً میتوانن توازای معثر کافی برای محصولات سرمایه مبلغ داخلی پدید بیارن با میانجیگری سرمایه تجاری عمودتاً در تسخیر تولید کنندگان خارجی یکی از معزلات جدی شکلگیری تکوین و تقوییت زنجیره هم باشد سرمایه اونقدر که به این حلقه پنجم مورد بحثم در میگرده ناتوانایی در صادرات غیرنفتی از سوی و تسخیر داخلی توسط طولت از دید در اینجا هم ما در این حلقه هم ما همباره شاهده گسستگی و سستی زنجیره هم باشد سرمید اینجا مشخصا نزاع بین تولید داخلی از سوی و سرمایه تجاری از سوی دیگر هست ملاحظه می کنیم نوعی نزا درون طبقاتی درون برج. که اگر در ادوار گنابون تاریخی به سامان نشده باز این در می گردد به نوع توازن قواهی سیاسی که در اون این وجود داشته است اونت به سالهای پس از جنگ 8 ساله در گرده همه دولتهای که خواهان این بودن تلقه ششم مرده بحثم سامان بدن یعنی پاشیه سود کافی برای سرمایه مولد ناکافی که توازایی به حد کفایت چه در بازارهای بین میدنید چه در بازارهای داخلی ندارید فراهم بکنن به دلیل همون عدم توازن قواه سیاسی درون طبق سیاسی آکم افزایش حاشیه سود صاحبان سرمایه مولد رو از جیب سرمایه نامولد و سرمایه تجاری به عنوان یکی ازشون سرمایه نامولدی تدیبی در این حال عزمشون همواره جزم بوده است برای اینکه هاشیه سود صاحبان کسب و کار افزایش از این روی. تمام فشار برای افزایش هاشیه سود صاحبان کسب و کار عمدتاً به افزایش سودآوری سرمایه های هدایت شده است به سمت دو کانالی که در هیچک از این دو کانال جامعه ایرانی امکان شکلگهی مقاومت مؤثری در مقابل تهاجم دولت صاحبان یک کاهش صحبری صاحبان نیروی کار که در حوضه دو به بحثت اشاره کردم با چه یعنی در سالهای از جنگ هشت ساله مدید شده است؟ در جایی که فاقد جنبش مؤثر کارگری نیز هست و از سوی دیگر، انتقال اون فشار برای افزایش هایشی سود صاحبان کسب و کار به سمت هرچه ارزان سازی، و هرچه دسترسپذیر ترسازی زرفیت های زیست. در جایی که به همون اندازه نیز فاقد جنبش سیانت از محیط زیست به طور متشکل و ارگانایزد و است. بنابراین ناتوانایی که بخشهایی از طبقه اقتصادی مسلط برای غلبه بر بخشهای دیگر دارد یعنی سرمایه مبلد طلب داخلی که نمیتواند بر سرمایه نامبلد و سرمایه تجاری غلطه بکند باعث شده از فشار رو به این دو کانال نیروی کار و زرفیت های م... زیست بارد بکنه چه؟ برد برد برد. دو بحران جدی رو و در آستانی تاریخی اون از هستیم که وارد این دو بحران داری میشیم علائمش رو به داری. دو بحران جدی رو یک بحران اختلال در باستوید اجتماعی نیروی کار به این معنا که دخل همواره کمتر از خرج بخش های ای از خانواده های طبقات پایین تر بهشون اجازه نمیگه نیروی کار نسل, نسل بعد رو متناسب با استاندارد های مورد نیاز در جهان امروز باستولید بکنه نیروی کار ما امروز به طور جدی دوچار بحران باستولید شده به معنی سرمونی دارانش نمونام که سیاست درک می کنند در چشمنداز نگران کننده درگاه جمعیتی در آننده درکان که اما اصل قضیه جای دیگری است این نموده است مسئله دومین بکران که نیاز به توضیح چندانی نداره تخریب فضاینده مهمتزی است که ما رو گویی در یک وضعیت ایستاده روی ترید نیز قرار دارم. باید با تمام سرعتمون بدوییم اگه قرار اونجایی که هستیم ثابت برقرار بکنم جایی که نیروی کار از سوی ظرفیت های از سوی دیگه در معرض تخریب قرار بگیرن سامان هر گونه نظام تولیدی از جمله. نظام تولید سرمایه در معرض خطر جدی قرار میدید بخشی از برجوازی برای قلبه بر بخش <تصفيق> های نامغلبه دیگر ما رو به این سمت هدایت کردی که با فشار بر محید زیست و نیروی کار به سمت تضعیف کل بازی کل سحنه بازی حلقه ششون مورد بحثم سوداور کردن فعالیت های اقتصادی صاحبان کسبوکار علا رقم توصیبی که دادن اینگونه نیست که صاحبان سرمایه مولد یا نامولد سوداور نباشد. درجاتی از سوداوری را از این دوره به اون دوره از رو خود به رونق متفارته از شرایط سیاسی زیر تحریم. ریاست با شرایطی که در تحت تعلیم شدید نیستیم متفاوت اما روندش آن بودو نبوده که صاحبان کسب و کار سوداور نباشند. سوداور بودن به هزینه های کلت اشاره کردم به برخی از اون. در حلقه هفتم پرسش کلین است که آیا در حقیقت این مازادی که پی این سودی که پدید میاد از نوع وارد چرخه هم سرمایه میشه تا برگردیم به ابتدای قصه در کنار اون نوع تمرکزیابی سرد در دستان عقلیت که از راه های غیر سرمایه دارانه شده از کل این زنگیر رو به پدیناهی پاسو بله میشه همواره شده است. اما کمتر در مرزهای ملی منداتم در بیرون از مرضهای بود. به دیگه اینجا ما منازعه بین اون نوع انباش و کارگزاران اون نوع انباش که در درون مرضهای بودی، این سیادت رو داریم از سوی و از سوی دیگه پدیده فرار سرمایه رو که هم به اعتبار شکاف بین شمال جهانی و جنوب جهان هم به اعتبار فقدان ثبات سیاسی مورد نیاز برای فعالیت‌های سرمایه‌داران در افق تاریخی بلند مدت چند دههای و علل دیگه باعث میشه که در حقیقت انباشت سرمایه صورت بپذیرد اما نه در این مرزها بلکه از رهگذر پیوستن به مدار انباشت سرمایه جهان در این حلقه هم ما البته با فراز نشین های تاریخی متقابه در ایران همواره دچار این معزل بودیم که زمینه های سرمایه به حد علاقه هست. در اینجا ریست ما فاقد پیدستگی و قوت در این حلقه زنجیره هم باشت سرمایه هستیم اینجا هم باز ناتوانایی بخشی از طبقه سیاسی و اقتصادی حاکم برای قلبه بر بخشهای نامولد برای قلبه بر اون بخش‌هایی که انباشت میکنن اما در این جغرافیا مطرح هست که در کلیت خودش سطح زندگی مجموعه ساکنان این سرزمین رو اگر بر تولید در یک نظام سرمایه دارانه باشی که هست کاهش شدید این که کلیم رو چارچوب مفهومی کلیم رو عرضه کردم. پاسخ به این سوال که آیا نظام اقتصادی در ایران نوعی نظام اقتصادی سرمایهدارانه است از نگاه من بله تا اونجا که بحث از... اون حلقه های زنجیره انباشت سرمایه بوده است که شکلگیریشون در گروه پیروزی طبقاتی طبقات فرادست بر طبقات فرودست بوده است در این زمینه در گذر زمان خصوصا در پس از جنگ 8 ساله این به تحقق ببسته است پاسخ آیا در ایران نوعی نظام سرمایه داری داریم؟ آیا در ایران زنجیره انباشت سرمایه به حد اعلی داریم؟ اونقدر که به حلقه های ای که تکریبین و استمرار اونها به نوعی توازن قدرت پایدار درون اون برمیگرده پاسخ منفی هستش ما در ایران نوعی نظام سرمایداری رو خصوصا در 20 سال گذشته داشته ایم که مزار هر نظام سرمایداری رو که هر جای هیچ دو جایی نیست که نظام سرمایداریشون اینن مثل هم باشه به حد اعلا داشته این بیش از هر جای دیگری در شرایطی که فوایدی که یک نظام سرمایهداری در کوتاه مدت در دوره های رونق در افق کوتاه میتواند برای ساکنان اون سرزمین بخشی بیشتر، بخشی کمتر داشته باشه رو تقریبا تجربه نکرده به یک، چهار پروژه من حیث المجموع پروژه واجد دقیقی نیست، ولی چهار پروژه در خصوص نحوه برخورد با این وضعیت وجود داره یک پروژه که پروژه حاکم بوده است پروژه اقتصاددانان طرفتار بازار آزاد رقابتی است برای حلاش برای شما آشناست، مذیت نسبی، قیمت بازار، دولت حداقل، آزادسازی حساب سرمایه، آزادسازی تجاری و علخر. به نظر میرسه که هم تجربه تاکنون و هم اللحاظ نظری، پروژت کردن تجربه تاکنون به آینده قابل پیش بینی، نشان میدهد که این نو سیاست ها نه بر حسب نیت بلکه در عمل ماسکی هستند در حال تقویت منافع سرمایه های نامولد سرمایه تجاری و نیز خروج سرمایه از کشور به نظر میرسه بخش قابل توجهی از موزلاتی که همواره در اقتصاد ایران داشته ایم نه به تنهایی اما از جهات عدیدهای برمیگردد به اون بخش از این سیاستها که قابلیت اجرا داشتند پروژه دوم غالبا اقتصاددانان نهادگرا در دستور کار خودشون قرار میدرند در خصوص متی ترسازی نیروی کار در خصوص کالایی ترسازی ظرفیت های محیط زیست اتفاق نظر دارند با اقتصاددانان بازار آزاد رقامتی اما به حلهای بعدی زنجیره انباشت سرمایه که می رسیم دولتی رو مطالبه می توانمند واجد درجات بالایی از حکمرانی و ویژگی‌های دیگر چندان که نهایتا حوشمندانه با برنامه از بالا به کمک نیروهای پایین سرمایه مولد رو بر سرمایه نامولد تولید داخلی رو بر سرمایه تجاری و نیز انباش در درون کشور رو به زیان فرار سرمایه تحقق بلقشه الهاز منطقی اگر قرار باشه بحثمون در یک واحد ملی فقط جلو بره این پروژه مشکل نداره تنها مشکلی که داره که بدوکتر ترین مشکلش هم در چارک ما هست این استش که اقتصادانان نهادگران تصریحا یا تلیحا ناتوان دیدن از تعریف پروژه پروژه